اللهم صلی اللهم محمد و محمد حمد الله بالله من الشیطان علیه الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم عزه سلام اندربه افترام درام پیدونت شما عزیزان نمچنین پیشا پیش, پیش تسلیت به مرسبت فرار سیدن ایام محرم الحرام و به جرعت می توان گفت نمادین ترین نام ماه تشیع و ماهی که حالا در مباحثم شاید پیش بیاد خواهید دید که اونهایی که با ترفیم طرفیم و نمیتونم ببینه این جریانات رو خیلی دست گذاشتن برای توهی کردن این نماد و رفتارهای نمادین اون بگذاریم جلسات رأس ساعت شروع خواهد شد مخصوصا جلسات این برنامه به خاطر این جلسات مثل کلاسه یعنی سخنرانی نیستش ما جلسه قبل درباره نماد نمای نشانه و تفاوت های اینها صحبت کردیم دستبندی های مختلفی رو عرض کردیم که برخی نماد رو نوعی این نشانه میدونن و برخی نشانه رو اصلا از نماد جدا میدونن نشانه اون چیزی است که خیلی راحت در دسترس ما می بینیم عرض کردیم مثل یک تابلوی مثلا ور خطر عبور حیوانات اهلی یا وحشی که با یه حیوان به سادگی آدن تشخیص میده ح اگر سووادی هم نداشته باشه هستم با این خدم من شما رز می کنم موارد اولین بار روبرو شده باشم پشت کوه هم بیاریش بذاریش نگاه میکنه یه چیزی میفهمید که اینجا یه حیونی هست که عکسش زدن استمالت. اما نماد حالت قراردادی پیش میاد یعنی قراردادی است که بین انسان ها گذاشته میشه. میزان قراردادی بودن متفاوته و درجه داره رنج داره. هرچی میزان قراردادیش شدن زیاد بشه ما از نمای و فاصله می و هرچی کم بشه به اونها نزدیک میشیم مثلا علامتی این که ما فراموش نماز بکنیم چیزی رو یه علامت در میزنیم یکی قرار قرارداده به هیچ وجه من وجوب خدمتی شما عرض بکنم چیزو در ذهن انسان تدایی نمیکنه. برای کسی یکتن ذهنیتی نداشته فلزا امروز دعوا دعوا سر نمادهاست سر قراردادهاست چون تغییر شمایل و نمایه خیلی کار سختیه. چون انسان‌ها فطرتاً همه چیز رو نمی‌فذیرن یعنی شما وقتی بخواید شمایل یا نمایی رو بخواید تغییر بدی با توجه به این که طرف برخورد مستقیم با اونها داره تا یه مدت می‌تونی مثل مسکن مثل داروی خواباور و خدراور این رو یک مقدار خدمت شما عرض بکنم سست کنی حالت بیهوشی بهش دست بده اما هر دفعه که هوشیار بشه از اون فضایی که شما ترسیم کردی چه میشه فاصله می‌گیره در بحث نمادها و تغییر نمادها که جدی دارن کار می‌کنن ما امروز در بحثی که خدمت شما خواهیم بود این نکته مانده جلسه قبل رو خدمت شما ارز خواهیم کرد و بلا فاصله سراغ رنگ ها خواهیم رفت اگه بتونیم این جلسه رنگ ها رو تمام بکنیم که جلسه, جلسه بعدی که حالا شد بیفته بعد از دهه محرم خدمت شما ارزو کنم که همین تایم احتمالم باشه حالا اعلام خواهیم کرد خدمتتون، اونجا بحث شج... شکل ها ها ها رو به صورت عام بررسی می این عدد چه ویژگی ها... هایی دارن شکل دایره مربع مسله چه ویژگی داره چه چیزی رو؟ آیا مسئله فکسی یا مسئله ایس قرار خیلی مهمه تفاوت داره ها یعنی نمایت یا قرارداد یا نماده اینا باید بررسی بشه آنالیز بشه و بعدش هم جلسه ما احتمال جلسه دیگه به غید از شما باشیم جلسه آخر کی مونده به آخر و بحث میذارییم سر خدمت شما عرض بکنم که نماده های اونها و آنالیز تخصصی اون و بعد از اون هم نمادهای های خودمون روش های برخورد روش های کارامدی های ما و غیره و غیره شاید اینطوری که من طبق مندی کردم سه یا چهار جلسه غیر از این جلسه ما در خدمت شما عزیزان باشیم نکته ای که اول عرضم خدمت شما عرض کردم این بود که تغییر نماد داره صورت میگه من زیاد تغییر نماد نمیخوام صحبت بکنم میخوام برم اول تغییر نمایه ها و شمایل صحبت بکنم بعد بیام وارد این بحث بشم ببینید تغییر نماد کار سخت نیست یک ریزی دقیق فرهنگی رسانه ای میخواد و طرف موفق میشه امروز بوده نمادی که متعلق به یه قومیت دیگه بوده و مصادره شده نمادی که توهیه شده مردم دیگه اون نماد رو به عنوان اون چی نمیشناسن مثلا یه فرض بکنید که ما زبدر رو تا دیروز نماد یه چیز میدونستیم به خاطر کار رسانی قویی که روش گرفت و فرهنگسازی که سرعتگیره و از این نماد چیز دیگری بدونیم خب این تغییر نماد جنگش دائم بر حال وقوع دائم یعنی شبانه روز 24 ساعت در حال جنگیم ما یعنی ما دارم میجنگن برای تثبیت خودشون تثبیت سنگرهای خودشون ما باید بجنگیم که نمیج خداده شما عرض بکنم اما تغییر شمایل و نمایه کار خیلی سختیه یعنی واقعا هنر میخواد واقعا برنامه ریزی میخواد چون شما میخواید فردی رو از داشته های درونی قریزی و فتری شده بکنید یعنی میخواید شما ببینی، یک حیوان وحشی رو ببین اما قبول کنیم حیوان اهلیه. خیلی سخته شما جغد رو ببین اما بپذیر که این حیوان دوست داشتنیست خیلی سخته. چون ذاتاً انسان صدای جوغ رو در شب‌ها شنیده تو خرابه ها شنیده چهره ای مثلا یه اوج این که مثلا رو بتونه راحت ببینه کجا دیده توی باغه وحش باز هم توی قفص جدا اینا بقیه پرنده‌ها همه کنار همن اما جوغ و عقاب ببینید جدا میذارن چهره اینا بقیه پرندا نمیذارن چه اینو میذارن سیکپاره میکنن اینا رو همین نگا راه گزاره ها تو ذهن شما و فاکتورها اونقدر تکرار میشه که اینکه سخت بیایم ما جوغ که نما اگه میخوام می‌خوام نمایه و شمایل بحثی و مفهومی رو بریم تعریف بدیم بزنیم به عنوان خدمت شما از بکنم استاد دانشگاه حیوانات در ها و کارتون اینو هنر میخواد یعنی اگر این ها پشت سر هم تکرار نشه و قلط بشه از دست خایزه یک نسل بگذره از دست میده سلام توی این حوزه برای تغییر نمایه و شمایل جایی که بیشترین تاثیر رو شما میتونید داشته باشید سن شما در کودکی مسائلی رو که بپذیریم حتی غیر غیره اقلانی باشه تا بزرگ ادامه میدیم. شما در کودکی میبینید فرق می‌ترسه از تاریکی. یک بار مثلا ترسوندنش. بزرگ که میشه به لحاظ اقلانی میگه آقا این تاریکی چیزی داره؟ میگه نه. میگه چه تفاوتی است وقتی برگوشن بشه خاموش بشه میگه هیچی. اما میترسی؟ میگه بله میترس. همه نیکیست خودش قبول داره این وقت غیر اعلانی نیست اما بدش میاد یک نسل که بگذره اون کودکی که تازه به دنیا میاد توی فضا رو نگرفته میشه چی میشه توی خانواده دو برادر یک از که میترسه یکی نمیترسه فلذا تغییر شمایل و نمایه مستلزم اینه یعنی که شما ضربات پشت سر هم بزنید به مخاطب اینها بحثه بسیار بسیار کاربردی چون در خدمت شما جان ارزم میکنم مخصوصا برای شما دانشجویان هنری یعنی چطور بدونید چطور از این را استفاده بکنید از این فضا بتونید بهره ببرید یعنی شما اول تشخیص بدید این گزاره که بیشتر دست گذاشید نماده یا نشانه است یا خدمت شما اصلا است یا شمایل بعد بتونید تو تفاوت اینا جلسه قبل گفتیم دیگه بعد از اون بتونید بر مبنای اون بده تغییر بدید مثلا شما قرارداد رو یک نماد رو در بزرگسالی همینتون تغییر بدید اما تغییر شمایل در بزرگسالی کار خیلی سختیه چون پذیرفته اینو. با که طرف. اینها اونقدر که اینو حوض قدی عمل کردن. که حتی از تغییر نماد گذشته رسیدن به تبدیل شمایی و نمایه. مثال متعدد. شون بخصان کار بردیست. مثالای متعدد دیگه خواهم کرد تا که ببینید چطور برنامه شده دارن کار رو کنن. و در چشم همون شما می این فضا رو باز بکنی می درند. اجازه صحبت بده نمیدن. میگه چیه آقای بزرگ نکنید سلام نکنید بمان اصلا نمیفهمه طرف چی بنده خدا ما تازه گفتیم چطور مکر اینا کشیدن تو این الان چطور آبلیس رو مفهوم بوشه سرجوش عوض کردن بله یه ستون سنگی نماده شمایه نیستش که نمایه نیستش که به سادگی عوض میشه قرار داده این ستون سنگی وقتی یادو شیکون نمیفته عادی من اینکه چی بشه شرطی بشه ساده مسئله اونو که عوض کردنش که کاری نداری هیچ اینا جبهه رو اومدن جلوتر سنگر رو زدن دارن تو این مباحثام کار کردن به عنوان مثال شما میبینید که ما در انیمیشنی مثل تام وجری ما باعث تخصصه بکنیم آن. از اساس فضاهای فکری که قبلا توش می‌دید کلا بیاد بیرون کلا که بسیاری از این فضاهای فکری خود شما شلتی شد نه به بهخیلی از مباحث قاعده بر اینه که گربه موش رو بگیره این قاعده این نماد نیست این بحث قرارداد نیست چون در طبیعت چه اتفاق میفته گربه موش رو میگیره زجکشش هم میکنه میره گربه وقتی شکار خودش رو میگیره مثلا موشه باش بازی میکنه نه جدید یا نه باش بازی میکنه هی با دهن میگیرتش پنجه لعوذ میکنه خوشش میاد باش بازی زجکش میکنه موشو شما در انیشن تام دقیقا نش این رو میبینید اون یکی داره زجکش میکنه گربه یا خود چهره این اتفاق میفته بله به خاطر اینکه تو فضای هنری وقتی شما عادات رو بشکنی طرف خوشش میاد وقتی یک چیز نرم عادی شکسته بشه برای مردم معمولا خوشاینده چون یک نگاه عادی ابتداییه که جا... نگاه جامعه شناسی میتونه باشه اما کسی که هنرمنده باید از این هم عبور بکنه برید ببینید اتفاقی جای دیگه من میتونم ببینم همچین بس رو کیش میده هست کجا مثلا؟ شما در اولین موردی که با عنوان مثلاً میکی ماوس میشینستید من برای اینکه که بحث رو بیشتر تر بکنیم و جدی‌تر پیش برید بخش های از سخنرانی ها و مباحث رو محول خواهم کرد به شما بگم خودتون برید پیگیری بکنید خودتون برید این مطلب رو سرچ کنید سوال خواهم پرسید بگم جلسه بعد هر که میتونه بدگید شما همین الان در اینترنت این جمله سرچ کنید ایز می کی ماوس کامونیست دو آیا می ماوس می ماوس یک یهودی یه کمونیست یعنی چی یعنی آیا این سوالی است ولی مقاله تو متعد شده اصلا می کی ماوس موشی که همه مردم ازش بیزار بودن از موش مردم بعضشون میاد مردم چرا موشو دوست ندارن تو فازلاب میبینن اذیتشون میکنه جایزه میذاره شهرداری میگه اینا رو با باکشی بیاد ما به جایزه میدیم خب این دوست داشتنی نیستش که میخواد باکشیش اما چه تغییر شمایلی داره به وجود میاد اون را عرض میکنم خدمت شما این اینو خدمت شما عرض کنم ارتباط انسان ها با گوربه بهتر است تا ارضابات انسان با موش یعنی مردم گوربه رو به زاد بیشتر از موش دوست دارند اما داری تغییراتی به وجود میاد این تغییرات تغییرات نمادین نیست تغییرات شمایلی و نمایه است. ولی باید دائم این مخاطب چی بشه بمباران بشه وگرنه طرف اون بحث رو از دست خواهد روی یه نسل دوتا نسل اثر میذاره تمامیش نسل جدیبیت میره در اروپا یهودیان معروف بودن به موش کسیر اصلا اروپایی با این عنوان میشناختنش همین الان بحث آنتیستمیتیزم و یه تیزی در اروپا هنوز که هنوز ریشه داره با تمام تبضیقاتی که داره در مورد این مطلعه صورت میگیره که کار است، بله کار بدی هم هستش آنتیسمیتیزم کار بدیه اینقدر بعد که من وبلاگ خودم رو که تحکیز کردم اولین بار به قولی آدرست خواستم بگیرم با اطلام آنتیسمیتیزم در دولکتا دستام گرفتم و اولین سه مقاله‌ای که گذاشتم واکاوی بحث آنتیسمیتیزم بود. اصلا تصوور داشتم که بحث آنتیسمیتیز مطرح بشه و طرح بشه و بررسی بشه ضد سامیگری اما بعد به حال دیدم حالا خدمت شما اصلا مباحث دیگه‌ام شد جلسات اونم گذاشتیم مقالات دیگه‌ام گذاشتیم مثلا که این ا... این استوار وبلاگ ما همین بوده چون برید اولین دومین و مقاله و ب... مقالات ببینید چیه واقعیت یهودی‌ستیزی در اروپا نشاره سامی شامل عربها و عبری‌ها میشه اما وقتی ما میگیم آنتیسمیتیز مراد ضد یهودی بودن نه ضد مسلمان بودن یعنی عربها شامل این مسئله نمیشن اما نجاد پرستان اروپایی بعضا این رو عامتر هم میبینن عام میبینن یعنی چی؟ یعنی عربها هم شامل این کلمه و واژه میکنن آنتی سمیتیزم ضد این نجاد سامی بودن نجادی که برتره نجاد انگیلا سکسونه این نجاد نجاد عقب افتادهیه جز دربتر بر دنیا سودی نداشته فلان ف فلان این نگاه انتیسیمیتیسی چونان وجود داشت که باعث شد که با الفاز مردم اینها رو چکار با مورد خطاب بدن موش ببینیم نماد چیه توی زندگی واقعی اما جالب اینو بدونید چون تمام شما تحت تاثیر بحث شمایل گردانی و نمایل گردانیه اونها بودین حتی الان در مورد موش صحبت کردن سخته باش خود شما موش نماد زرندوزیه موش نماد شبکه مخفیه ز هر سراغی که درست میکنه ده تا در داره برای فرار کردن نمیتونه گیرش بیندازی نماد زاد و بلد بسیار زیاده یه جوری دینا تساعدی رشد میکنن تا جایی می هرخي از که اینها به لحاظ علمی هم قابلیت بدنشون جوری که قابلیت مقاومت سازی دارن یعنی برخی از سموم دیگه اینها رو از بین نمی یکی از این دانشمندان بنده خدا که در حوزه محیط زیست تخصص دارن ایشون. من دانشمند می نام این بزرگوار رو یه جایی بودی میشون گفتش که اگر موشا عقل میداشتن قطعا حاکمان کره زمین بودن یعنی ما انسانها رو میزادن کنار یه باید بگو بعضی از این موشا در ما تششکات عطم میشن یه چیش نمیشه تمام این گزاره ها را مردم اروپا در یهودیان میدیدن میگو شبکه مخفی دارید در حاله ها در خدمت شما عرض بکنم که محله های خاص خودتون فیدا کام بهش میگن در روسیه بحث میزشن در ایتالیا اسم میذشن زندگی میکنید زاد و بلد زیاد دارید ببین همین الان ما در اسرائیل مادران هشت فرزند داریم یعنی اگر یک زنی هشت بچه به دنیا بیاره اون خاخام اعظم فرمان داده فستوادو که میره بهشت هر کاری کرده باشه بحث جمعیت خیلی جدیه اونا دنیا رو این شک بگیرن کسی رو راه نمیدن یعنی شما همین الان برید یهودی بشی ما من حرفی نمیزنم اما دلیل اینکه اروپایی‌ها چرا به اینها میگن موش دارم عرض می کنم همه اگه شما بخوید یهودی بشید نمیتونید یهودی بشید میتونید مسیحی بشید بله میتونید مسلمان بشید بله با آغوش شما این پذیرم حتی ادیان غیر ابراهیمی شما بخوید بودیست بشید میپذیرن بخوید بهایی بشید حتی دین هم نیست فرقه میپذیرن اما بخوید یهودی بشید میگه شرمنده کسی یهودی است که پدر مادر علل خصوص مادر یهودی است می کسی رو راه نمیدن بین خودشون زرندوزن اصلا داستانهای ما کوهن ما ایرانی ها هم هست که موش چی جمع میکنه سکه طلا بوداره زرندوزه موش دوزه اصلاع اصلا معروفه اینها رو هم میدیدن و واقعا گزاره داشتن بابت اینها وقتی شما بحث میکنید با این خدمت شما عرض رو کنم افرادی که قائل بر این مطلب هستن که چرا همچین اتفاقی افتاد بحث منطقی میره این ها که سرمایه مردم میگرسن این ها کسایی که بیدن شبک مخبیدشن فیلا. نوع دیگر که یه بود متأسفانه که این ما بگیم قطعاً مسیحیان هم که حضر افراد بیدینی حضر را دادن. شباهتی بین کلمه ماس و موسس بود. موسس نام حضرت موساس. این شباهت باعث میشد که چکار کنند کنن؟ اینا از این برس استفاده بکن اینقدر زیبا کار کردند اینقدر قشن کار کردند و استفاده بهینه انجام دادند بردند از هنرمندان که امروز ما تو اروپا همچی مثالی اون نی آمد بگوید شما یهود را نماد موش ندان اومد توهی کرد موش را از نمادهای زشت افتر موش بحث زشتی نماد نیست نشونه یعنی نشونه داری بابت این کارشه بابت این کارش نشونه میتونی بیاری نمایه و شمایلش اما اون زیرکانا آمد اگر گفت نگویید به یهودیان موش میدونست مردم میگن موش الانسان حریصن الا ما منعه انسان استاد مثالی که ح... من میشه چی میشه حریص میشه میگن آقا این اتاق نرو خواهشاً توی خونه هستی تا صبح جون به لب میشید اونجا چه خبر بوده او چی داره میگه سرکی بکشین زیر در بالای در. گوششو میذاره فلان بالاخره میتونه بفهمه اومدن چی اومدن چیکار کردن شروع کردن انیمیشن ساختن گفتن شمایل و نمایه‌ها کجا رو تغییر بدی تو چه سنی خودش. اصلا باشه اومدن شمایل رو تغییر دادن نشون ها رو تغییر دادن اومد انیمیشن ساخت میکی ماوس اسمش شاهکاره خود میکی با یک تغییر املایی سی به یه سی و که که جا بشه تفاوت به وجود میاد در جمع مکسر موش و مخفف نام میکایی که باز نامی چیست؟ ابرانیست میکاری نامی ابرانیست مطلق یه مدیانه اولین بار در کتب احضا قدیم آمده اینها خود ماست که موش میک باز زوره اون خدای شاور عرض می‌کنم نگاه کنید جامو کسر موش بقیه نشانه ها و نماد ها رو که نمیخواد صحبت کنیم مثل دستکش سفید غیره غیره کنار بعد مفصل سر وقت برسیم بگیم وگرنه الان پاسپورت چه میدونم پلیس راهنمای راننده هم دستکش سفید دستش میکنه باهم دست خیلی از خانما دستکش سفید دستش میکنه به خاطری که کثیف شدن اینو چیکار بکنه تشخیص سنتور اواشنس رنگ ها همین گفتم اینو برای اینکه قاطی نشه میذارم همون موقع فقط این زنده ذهن مبارکتون باشه این کار صاف بشه و جالب میبینید که توت اها میشه تو این کارتون خیلی جالب وا بررسی کنید تو این کارتون توتل های عجقریب الان این بنده خدای موشه میشه و این همه چیکار میکنه پاسخ میده و ما خوشمون میاد همزمان عروسک ها گوش کنید عروسک ها و مجسمه های موش تمام بازار میگیره همزمان مغازه هایی که به فروش ایوارات مشغول بودن مثلا مثل مولوی خودمون موش های دستاموز و تربیت شده میارن شما من دونیتون دونی اینا رو دارم میگن تو ذهن مبارکیتون داره میچرخه یک چرخی که موشه توش میده تو کارتون دیدید هی به این قضا میده هموش کسیف ازاز بیماری داره فلان نمیدونم نه این مثلا واستنش دور میکنی تو فرقین داشته باش تو خونه تو با این اخت بشی این نماد باید فرو بریزه و واقعا همینه موفق شدم بس شاهکار انیمیشن جهان میاد با عنوان تامو شما آرزو میکنید یه بار این موشه کتک بخوره. به قول یه بند خدایی میگفت من ای شدم این موشه بار کتک نخورد من خودم به شخص در این سلسل قسمت های تامو جری میدونید کدوم قسمتش به دلم نشسته اون قسمتی یه ارگ میزد این انداختش لای دکمه های پیانو میزده بخشید یعنی انو چی خورده کتا خودی خورده من جیگرم حال هنوز که هنوزه آرزو دارم فلا. این کار انیمیشنی بود این گورگی دنبال اون بیغ بیغ مقاومت بگیر اسمش شو اسم دیگه نداره خب چی؟ آها خیلی حرفه ای شد من نمیشم تو این حرفا تخصص ندارم چه کارتون و انیمیشن خدمت شما عرض کنم همین بیغ بیغ خودمون من شنیدم که دیوید بکنم پول داده بود که این گورگی بگیره و برآوردن به این نشون دادن اون تیگه اینو گرفته میکوشدهش بعد میخورشنه آخرشنه میخوریم اوشه جونش میکنه منم هم چگرم شد خم داد زود آخر میزه این برای نه حتی نگه چون در ادامه ممکن جواب بدم خب دوستان این بحث وقت خاطر ما باش این فضا همزمان وارد ادبیات هم شد آلمان ها شدن نماد گربه و یهودیان بنده خدا شدن نماده موش لطفا فایل باز بکنید از شماره A جایزه پلیس رو گرفت دست راست بله همونو پخش بکنیم شما میبینید که این جلد یک روماره ماس به زمان آلمانی نمشته و یهودیان که کشته میشدن توسط آلمان ها به اون شکل دوموش نشون شده. شدن شما آرمه ایس اس رو پشت سر چه می بینید؟ گرمه می رنگ سیاه و سفید خیلی زیبا استفاده کردی اینجا تو روحش رنگ ها می رسید اینو مثلا ادامه دادن این مثال هست رومان های مختلف فیلان فیلان همینجیر پشت سر هم آمدند پشت سر هم اومدند یعنی شما یه اول از قبل این اول این نکته یک پیام بر خود یهودیان داشت مبنی بر این ک جبیه چه جوری پدر خامدر در آورد؟ تو هم میتونی پدر در بری نگونه که داره فلان به همان مثلا این چیز که ایک کومیدی در هشتای هم شده جایزه معروف دانشوی خدمت شما ارز می‌کنم که کولومبیا رو میگیره کولیک داره این جایزه است که به روزنامنگاران نویستنده ها میدن یک حمایت رسانه‌ای هم از این بحث میشه این جریان همینطور ادامه بده میکنه. تمام کشورها رو میگیرن. دیگه مردم کنید خیلی جالبه. خودشون تمایلی ندارن که به یهودیان دیگه بگن موش. چرا؟ چون دیگه موش نماد این مسائل نیست. اما یهودیان همه نماد اینجور چیزا میدونه. خودش بی این ربطی که داده بود میشه. بی خیالش میشه آقا. میگه نخواستیم خوب نبود. اما اگر این ضرب آهنگ ها ادامه پیدا نکنه چی میشه؟ چون نماد میشه شمایل مردم دوباره باز فله گشت. باید یک کسی دیگر رو یک جریاد دیگر بشه سونیمه موش. که اگه بلش کردید این به این بکره. کنم متوجه عرض رو هم نشدید. خیلی هنرمندی بخواد. یعنی حد دقیقا میگم ده تا روان شناس نماد شناس نماد که رو نداریم؟ در تا روان شناس حد چرااس حدداقل کسان چی چیکار باید کرد؟ کارتون چی بسازه ده کارم کم گفتم به خودم. خدمت شما عرضو کنم تصویر رو به شماره بیل شروع شدید تو فضای کاریکاتور ها و فلان و اینجیت مسائل هم آمد بس مییکی ماست و شما می انسان هایی که خودشون را رو شربه چی کردم پایین موش دا. به این تصویر رو فیمی که از خدمت شما عرض بکنم؟ موش تراشفاز با هم دیگه ببینیم خب من با شما نگاه میکنم صدا ندار آقا بس کنید صدا شو بس تا دوبله شده الحمدلله. دلاله اینجا دوبله شده لازمه زیرین نگاه کنید خوب میخوام دقت کنید خب بره بسیار صدایی شیباییست <تصفيق> امیدن عجله ندارم قشنگ درست صدا چه پخش بکنید دوباره برمیگردونی عقب پیش موشی نداریم این صدا ما نداریم پس شما بود پخشون شم. این بحث خدایت موشی یه نکته از خالی اما این نماد نیست من گفتیم که هر واقع شما صداشو درست کردی من از صدایی که اینجا مید متوجه میشم من عرضم رویدامه بدم ببینید اینجا اول اوه اگر دیمون دو اینها اول اومدن چیکار کردند؟ کردن اون بحثی که ارتباط داده شده بود با موش رو گرفتن درسته اما چون قطعا موش رو مردم در نهایت بد خواهند دونست این نسلی که کارتون برستاخی یا باید تا ابت کارتون بسازیم که هزینه بره به جای این کار یه لحظه کات میکنه جب چشم شما رو ببینید یه لحظه کات میکنه وقتی شما حواستون نیست متوجه یه چیز دیگر رفت میده حالا تره دوبام اینها شروع شده ببینید برنامه ریزی برای که حالا نگاه کنید کارتون ها و تو آقای به ایچ وقت احمد نیست یا بخوریم به خاطر موفقیت چیه نگاه کنی؟ چیه؟ زلفقار چاقو برای موش میشه چی؟ چاقویی که قوشت داره و زلفقاره صاحب دونک پس رو زمانی که این نمایه رو تغییر داد میدونست شما برمیگردی داره مورد دیگری جایگزین گذرمی مثل یک شعبت باز هردیکیش دیگری جاییش به شما مثل یک مغازدار ویسینش رو شما هیچ وقت نمیدید که در درست میتوند روزنامه میزنه وقتی کارش سمشی یه روزنامه رو میکنه به, لف... به یک بار کات خواهن شد بستموشو و شما خواهید دید این رو شما می‌بینید که اون فرد با هدف میاد میسازه هدف نیستش است که دقیقا شمشیر قوسدار عربی بشه نکشان زنفقار باشه و جالبه کسی که دیگه این شمشیر در دست داره بترسه بلرزه و بعد شمشیر پرت کنه به زمین و او پوشت این به زمین بزنه اون موش دیگه که یک داره رنگ اون موش قهوهیه تو روانشناسی رنگ ها خواهیم گفته رنگ قهوه‌ای میشونه استحکامه یعنی مباحث دقیق و دقیق مولا دردش نمیده مولا دردش نمیده اینجاست که هنرمند در خدمت چی قرار گرفته خدیسی ها و کتیف رت خودش رو فراموش کرد اما بهتر بگیم در خدمت هدف خودش ها رو گرفته. او جزی از این دست است. او برای این کادر کار میکنه. ادامه دید ؟ ذنده خب خوبه یک مسخاق بود، موارد زیاد هست. ما تو این جلسات بحثا برای اینکه موارد رو هم مسخاقی بگم، بحث تئوریش رو میگیم، بحث مسخاقش هم میگیم. بعید میدونم این سری جلسه درست،, درست انشاءالله تا آخر ادامه پیدا بکنه. بعید میدونم که تا حالا همچین جلساتی بوده باشه در کشور. و حتی در خاورمیانه مطمئنم حالا چون تخصصی بررسی می‌کنن. شک ندارم که اونا 20 جلسه می‌ذارن برای این کارا و, ت... و تدریس میکنن اینا رو. اما بعید می‌دونم که این کار شده باشه و انشالله که مفید فایده واقعی بشه و این سیدی ها زبت خواهد شد با کفیت خوب در اختیار بقیه هم قرار خواهد گرفت خصوص دانشیان گرافیک چه میدونم انیمیشن و همه مواردی که مد نظر هستش خب دوستان این بس پس یکی نیشد تغییر شمایل زیاد مندگار نیست چون فطری نیست فلیزا میتونید با مسکن دورش میکنه یه تغییر رویه بدید دوباره برگرده وقتی بنیار چیز دیگری گذشته جلوش اما مردها هم اینا دقیق نیستن اما اثر رو بر روی ذهنشون میگذاره یونگ میگه روانشناس ناخودآگاه اما تغییر نماد چیه شدنیست یعنی به سادگی شما یک بار یک بار موجه پس انی رو نماد رو تغییر دیگه میمونه چون هیچ ارتباطی با فطرت با ذات با غریزه با طبیعت نداره از روی این علامات فلان بدون از اون علامات یه چیز دیگه بدونید که موارد متعددش رو خدمت شما کردم مورد بعدی خدمت شما از بکنم که از تغییر نماد تا تغییر نمایه و شمایل خالی کردن و توهیه کردن بحث نماز خاص ما شمایل رو گفتیم آره نه گفتم کار نماز تغییر دادنش کار سختی نیست این کار کارو انجام بدن مثلا این که خدمت شما ارزو کنم ما در کشور خودمون چیز کار بردی که میبینیم نماد مقاومت میدونیم اصلا در نیان اعراب هم همین شده مثلا شما میبینید در دفاع از مردم فلسطین وقتی میخوان راه بیمایی بکنن چفیه سیاه و سفید مینزن چفیه چی؟ سیاه و سفید نه قرمزا اون تبدیل شده به نمادی دیگر نمادی چیه؟ از من چرا؟ چرا وحابی ها دست باشن چپیه قرمز. است؟ خیلی، چون بیشتر کاربرد در بین عرب داره در بین عرب ها چفی قرمز، بیشتر رواج داره تا چپیه سیوسفید چپیه سیوسفید هست اما چپیه قرمز داره فولارا شده مثل لباس پلوخوری شده اون میدونه چی رو مسادره کنه توهی کردن این نماد بخواهی بری پشت این کار ساده تر از بحث شمایله مثلا دیگه ص ما شما میبینید مثلا در تغییر شمایل شما می‌بینید که اسلام همیشه داره چی نشون داده میشه؟ بد نشون داده میشه. یعنی مردم دنیا می‌خوان پذیرفت. و تبلیغ دیگه میشه. اما دیگه نماد خیلی دارم. مثالی برای شما بزنم. ما نماد ماه و ستاره رو نماد چی می‌دونیم؟ اسلام. الان خصوص نماد ماه، یه ستاره هم سوش. مثلا هلال احمر دیدید؟ یه ماه یه ستاره شب و صدای گل خدمت شما عرض بکنم که من خاطرم راست این عکس رو به قضا فرمان بدم اما حالا میگم تو تدوینی فیلم ازم گذاشته خاطر شد ما و ستاره از سوی دیگر نماد چیز نماد تیتو شرواینر شرواینر یک شاخی از شبکه‌های ها و جوام مخفی باشه که مینه کشفای اسلامی کار کرده آ با در ارتباطه بی سه در ارتباطه بگیم آب با ب در ارتباطه یه جور دیگه همین ا با ص در ارتباطه پس بی با ص با هم در ارتباطن یعنی این یه خورده طرف بمباران بشه بمباران تصویری رسانی میشه چه اتفاقی میفته شما مسلمان ها رو با شراینر ها یک خواب دیدی کاملا زمانی که بنده سریاد می‌زدم آقا نماز ها رو دارن مصادره میکنن متوجه نبودم وایسا یعنی فرامرزیه بیرون از این مرزهای ماست فهمیم کل دنیا در این کار رو میکنن ساختمان که بالا خونه کعبه ساخته میشه که رفتی به ایران نداره که فقط نماد آب ریسک و منا رحمه جوهر رفتی به ایران فقط نداره این طرف جریان عرض کرده جریان چگاه کردیم توی ایران تونستیم بشکنیمش اما چی کشور عربی ما دوما بشیم که همکاری نمیکنه کنست او. نه ترس شما همکاری میکنه نه الالمش در حالی که ما نتیجه بسیار بسیار عالی یعنی نمره 100 100 رو میگم نمره 120 از 100 ما در داخل کشور گرفتیم. মিয়া این کارا انجام میدن. مورد دیگه نازی ها چطور احترام می گذاشتن؟ احترام نظامی دست راست میوردن جلو. شما میگی حزب الله لبنان چطور احترام میگذاره؟ دستو میاره جلو. ببین این دشمن رو همین بحث کار میکنه. میگه که حزب الله این نوع احترام، هیتلر این نوع احترام. پس تزباله مساویس با هیتلر هیتلر یا آدم یک جنوبری که لول و بود همه رو می‌خورد. اینجا جا افتاده پس تزباله ها میشه همه این همه یعنی یک ببین همه چیز رو همگان داند یک فرد نظامی نصادی مساعده چیه؟ ناآگاهه اون فردی تخصص تو حوضه هنر داره باید بره مشابه مشاوره بده در برس ارگونومی توضیحات مفصل حالو که نقشه هنرمند چی سایه تراح چیست در انتخاب رنگ ها در انتخاب شکل یه دکمه مثلثی بذاری مربع یا دایره بذاره قرمز بشه یا سبز بشه دکمه که خطره چرا همه دکمه خطر دایره است و قرمز چی در این اینا هست روانشناسی سرعتی چیست بحث کنیم که یا یک مورد دیگه نماد ایرانیان ای سوستیکا چرخ خورشید بخوایم بعد استفاده کنیم بگیم چی؟ درست سردید بگید بگید اس متاسفانه این نماد ایرانیان بوده اولین سوئیستیکا 7000 سال پیش در خوزستان پیدا شده. اینا فجوه شده سلام خدمت شما عرض کنم مولا ارزش نمی داره. در هندوستان بوده عموماً مرتبط بوده با ایرانیان اما تخصصی هجله به چیه استفاده میشه نماد خودش بعد تفاوت داره اسی ای که این طرفی بچرخه یا اون طرفی بچرخه طلوع خورشید باشه یا غروب خورشید بستگی به زاد روز خورشید داره یا روز مرگ خورشید داره سال مرگ روز به قول روز مرگ خورشید این هم که بحث نمادهای تخصصی ما توضیح خواندم اونجا که ما اینا هیچ تشخیص نمیدیم ما تشخیص نمیدیم که این کدوموری این اصفهان قرار که اینو خیلی خیلی تخصصی است همین باعث میشه به در دیوار گیر میدن خدا شما رو بکنم می خوام هیتلر مصادره میکنه امروز در کل دنیا کسی این می بینه دیگه نمیگن مال ایرانیه میگن مال کیه شما به نظر تو گردنت نمیگن ایرانیه میگن نئونازیه خونه شما مصادره کنه چرا نماد بوده کجای این چهار ربطی با ایران شما میبینید ربطه پتری قریزی هیچ جاش هیچ جاش وجود نداره مطلقا وجود نداره فلز را به سادگی میتونه مصادرش بکنه و این جریان مصادری کردن نوات های ادامه داره ما هسته ترک میچه دونه دونه داره پیش میاد در حالی که ما در جریان خدمت شما ارز بکنم جنگ مفاهی میکنم مفهومی و جنگ نرمی که وجود داره ما دفاع بکنیم از اینا و ما مصادره بکنیم مورد بعدی که قدمت شما باید عرض کنم ترکیب نماد هاست اینو به عنوان یک هنرمند میخوام دقیق، دقیق بهش توجه بفرمایید ترکیب نماد ها اونه که در ذهن یک فرد شما اثر نمادی میگذارید بیان که نمادی دیده باشه بسیار هنرمندان است. و تقریبا به جرئت میتونم بگم پنج درصد فیلم ها و تولیدات اینا پر از این هاست مثال برای شما بگم تا جریان جا بیفته وقتی است که شما عزیزان تو خیابون بارها باش مواجه میشید به یک باره فکر میکنید یکی تو خیابون دیدید سر و بر میاد یا میبینید اون نیست هیچ باعثیام یعنی با اون نداره میگی چرا من اینطوری فکر کردم نمیدونید اما به شما عرض اون فردی که تو ذهن شما بوده فرض بکنید فردی میان قدر. فرق کتنش میکنه با شلوار مثلا چه میدونم جین تک کتنش میکنه بعد خدمت شما عرض بکنم که مثلا ریشم داره ریشش هم مدل خاصی این ستا گذار قد و قبارش ریشش م... نوع پوشش از که تو ذهن انسان میمونه من میدونی که انسان در بدب تولدم همینه یه رو که شما میبینی اینجوری به قیافت داره نگاه میکنی اینجوری در کمتر از 6 ماهگی هیچ زیبایی در وجود شما ندیده. شهرت خیلی پیچیده است. چهره‌ای که پیچیدگی زیاد داره زیاد نگاه می‌کنه. این هیچ برخ خوب بدونید که اصلا چشم‌هاش هنوز کامل. قدرت تشخیص داره به خاطر همین کسایی که مثلا تضا تو چهرهشون زیاد باشه اینو خیلی نگاه میکنن فرض بکن یک فردی که پوستش سفیده و ریش داره. ریشش هم آنکاد کرده. یعنی سفیدی در داخل سیایی دیده میشه این باتیم جوری نگاه میکنه میگه این چه از من خوشش اومده چقدر فلانه نه این توهمات شماست آره یک آن میبینی ها میبینی اون نیستش اه. فقط یه نفر تککت کت اونو تنشه شبیه اونه چرا من فکر کردم اونه من به شما میگم در آن واحد سه چهار نفر کنار هم بودن یکی ریش شبیه اون بوده یکی کت شبیه اون بوده یکی قداقوارش شبیه اون بوده یک آن ذهن آنالیزور شما و بسیار بسیار طبان شما میاد چه میکنه؟ میاد ستار یکی میکنه چون خودگذاری شده است امروز تو فیلمهاش اینا از این بحث ترکیب نمادها دارن استفاده میکنن بسیار آقای یعنی برای کوبیدن کشور شما لزومی نداره پترم استفاده کنه یه رنگ سبز گوشه میره یه نماد از ایران که مردم ایران رو به چی میشناسن؟ یه دونه گوشه مییره. یه چی شبیه پرچم شما، نه که فقط رنگ سبز و سفید قرمز یه قرمزی تو هم میگن. یه دونه این طرفی میره، دونه بعد یه چهرهی بسیار بدم نشون میده. ایران مصادره چهره باشه. کجا ای ایرانو بگرد نمیشه پیدا کنه، میگن حس و حال داشت. ترکیب نمادها رو به بفور استفاده میکنن. به عنوان مثال در فیلم دیگری که باز ما به با افتخارمان ندیدیم الان یادم افتاد کاش میدادم. اما قبلن تو برنامه پخش کردم اینو. رو. من برای خودم پخش میکنم که خوب بتونم آنان حوزش کنم اما توی خدمت شما رز بکنم در اصل فیلم نگ شده شدهن رو قرار پای خدمت شما ارعرض بکنم مسابقه خوشیز بین نم کوشتتی ایران و کوشتتی امریکا. خدمت شما عرض بکنم در این فیلم ایرانی اولیل امریکااییگر میزنه زمین رنگ که در مورد ایران استفاده شده خیلی جالب لباس این فقط چطوره؟ به این شکلی که مثلا روی بازوش رنگ سفید، سیاه و سفید کنارمه در پرچم ایران ما مستقر رنگ سیاه نداریم رنگ سیاه تو کجا است سیاه سفید قرمه؟ کشورهای عمده کشورهای عربی اینا بر مقناه بحث ناسیونالیزمی که داشتن ملیگرایی محض و شدیدی که داشتن پرچمهاش رو شبیه هم و رنگهای شبیه هم انتخاب کردن این روی بازوش میبینیم چی که سبز رو پشتش میبینی بعد خدمت شما ارزو کنم نه حدسش دیگه گفتم وقت گرفته نشده. نه ایرادی نداره مهم نیستش فیلم بر منطقه از شماست خدمت شما ارزو کنم نه چون کوتاه تا بره بیاد حالا میخواد ناکام از دنیا نری باشه بعدم یه ناوی نداد فلان شد چی بود خواسته هم, هم چیز دیگه دارید ما <تصفح> دانشگاه هنری دیلی. هنریه لبتو از اینجا خب از اینجا می شود که درست که درست خراب ما خرابش کردم کردن، خرابش کردیم مثل من خب حالا همین بحثو تا این دوستان برسه من توضیح بدم در موردش. شما یک بحث رو اینجا می‌بینید که یک اون هایی که مربوط به اعرابه. و شهری کاملاً عربی که به نظر در ایران همچین تیپی پیدا میشه، خب پس خودیدانشان ایران, ایران گلستان نیست از مجموعه گلها همه نژادها، همه زبان‌ها در این کشور دور هم جمع شدن. خدمت شما عرض کنم وقتی شما می این تو ذهن شما میشینه و خود این فرد نوانده ایران پرچم ایران تنشه پرچم ایران تنشه و نوانده این بیکینی میزنه چی میشه شما به لحاظ نمادین تمام ایران رو میکنی یعنی عرب و میگی چه موفق هم شدن ایران چرا چه میگی شما در اروپا وقتی میگی من ایرانیم ام میگن شما عربید وقتی میگید من عربستان تعجب میکنن میگه مگه میشه برای چه شما عرب هستید فقط ما. All uh right. -huh. نشون بدید. این نواده ترف شرائنره حتی اکس فرعون رو هم شما می‌بینید، ماه و ستاره بهید تصویر بعدیش شما در اهم کشورهای خیلی کشور اسلامی ماه شده یه فرشنه ترکیه استفاده میکنن این که در پرشنه ترکیه استفاده شد ناشی... ناشی از حضور عجیب قریب یهودیان دنومه در ترکیه بود یعنی اونجا اولین بار این کار شد بعد به تونست کشید الا الجزایه، پاکستان این هم کشه هاشو محسطاره استفاده میکنن خب خوبه و این اصلا یک محسطاره نماد کوهره در این یافته های آثار باستانی هم دیده میشه خب مورد بعدی که من این رو بگم بعدش که سراغ رنگ ها بحث رفتار نماد هاست که این به درد بیشتر دانشگیان جامعه شناسی و سیاسیون میخوره کسی که اولون سیاسی شما من یک هنرمند در آنالیز این باید توانمند باشید هم خودتون هم اساسیدتون چرا به خاطر اینکه بعضا برخی از رفتارها در میان مردم مختلف نمادی از خوی آن مردم است تعارف بیش از حد ایرانی ها این نشانگر یک تفکر عمیر بین ایرانی هاست ایرانی ها که اهل تعارفان اهل احترام گذاشتن به همدیگه دیگه هستند اما میبینید این تعارف ز... زمانی که طرف ماشین قرار میگیر از وين کام از وين میره متاسفانه ما به ندرت افرادی رو میبینیم که اجازه بدن طرف مقابلشون بره این میتونه برای یک فرد یک روان شناس یک جامعه شناس این رفتار نمادین ایرانی ها چی باشه یک عنصر برای شناسایی و ضربه زدن مردم باشه بگن اینها ها که وقتی رو در رو با همن احترام نگه میدنن اگر رو در رو با هم نباشن این هم دیگر در میرن بهترین فضاوری فعالیت سایبری و اینترنت فرامان شد شما میمینید چون همیلیت دیگه نمیشستن شما میمینید بلوتوسته متعصفانه مبتذل از یک دختر ایرانی خب ایک کار خیلی ویزشته اصلا دینی هم نگاه نکنید فاجعت فاجعه. فکر بکنید همین بلا سر ناموس خودتون بیفته. با چه حقی یک فردی کاری کرده سیدیش دست به دست بشه؟ کدام ما معصومیم؟ کجای اسلام اجازه از کاری داده؟ یه ما داده؟ ولا سجست از تو، به شما این رقص نداره که به ارتباطی نداره اصلا، نه دینمون اون اجازه میده، نه انسانیت و دین همون انسانیته چرا اونجایی اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه که چهره ها هم دیگر رو نمی بینن ها هم دیگر رو نمی شناسن ببینید رفتار نمادین ما چه کدی تونه به دشمن بده برای زدن این مردم اینجا یک منرمند باید چیکار کنه بیاید این مردم رو با مفاهیم بسازه با فیلمش اینها رو بسازه رفتارهایی زشن مردم رو به خودشون بگه بعد از این فیلم ها مثلا یه فیلمی ساخته شد که آی پرویز پر از فیلم من وقتی رو نگاه می کردم هم خندم می گفت هم متحصر می شدم می راست می گفت. ما خودم می غیبت کردم برای اون جافت همون قیبت می کنی. ما خودمون تنسکر کردن بعد مومن سه روز قرباشه فیلان میشه شه می و خانم و یک انتیماتوم می ده, می ده. چند ساعت دیگه اشتر تایم ندارید ببینید رفتارهای زشت ما وقتی که منرمند زیبایی ناره بیدیو که شما بکشه ما تغییر می‌خوین تغییر بدیم و این کار کار قانون نیست بدونید قانون ضرب شد در هم شیر دست اونی که فرهنگ سازی میکنه یک هنرمنده صدی بیا بهش براش بگو چوبنده ایمنی ببند بابا اون بیچاره اون بنده خدا پلیسی که واسطدم یکا بند برش درش باره تو داره میسوزه. تویی که انشالله میخوای گور به گور بشی تویی که می‌خوای به درک واصل بشی توی که می‌خوای قتل نخا بشی بچه‌ها بمونند. هزار مشکل پیدا بکنن چی شده چرا نمی فهمی به داره کار میکنه چون هنری نبوده زبا اما اگه همین هنری باشه یک تصویر از یک دخترخانی که پشت یک شیشه بخار زده است، تو بزرگه ها نست کرن یک دخترخانی که منتظر که پدرشه احسان. من به چشم اثر این رو دیدم عنوان استاد اصطای دانشکانی برما زیاد میریم در سخنرانی من میدیدم طرح می ترمز این می رو میدید یک اثر هنری گفتیم با وقت نمادها و هنر تصویری جای چنان کاری میکنی که هیچ کلام دیگه کار انجام بده قدومت در این جلس قبل بحث کردیم عزیزان در یک رفتار دیپلماتیک دیپلوماتیک دست دادن ها همه چیه نمادینه یک فردی که وارد دنیای سیاست میشه میناه اینا آموزش داده میشه تو اداره امور خارجی ما اینو آموزش داده میشه. عزیز من شما که داری میری اینجا مراقب باش. یه وقت با مراقبتش بالا به دست نده دست بدی اینجوری باشه چند سونی نگهدار فلان فلان هر کدوم اینا معنی داره. و این معانی نماد نیست نشونه. ما نماد رو بردن از استفاده کردن اون عام استفاده چرا؟ چون وقتی یه نفر با بی میلی و یه نفر دستده یعنی چی معنیش هم مشخصه. یه نفر دوستی و یه نفر دست میده احساس و علاقه شده شده. یه نفر دست میده سائل طرف هم میگیره بازوی طرففه میگیره گیره معنیشوننشو میده یه نفر می سای احمدی نجاد و و گ شاز بغل هم دیگه, ای پران هم دیگه معنیش خب این برنا همن بلند میکنم میذاه ذرم معنیشونشون میده خب اینها باید تعبیر بشه چی ودید بشه باز هم هنرمند. نوشته دیگه که از این پس بعد بتونید آنالیز کنید مردم دنیا رو یعنی شما الان بعد مثلا بشینید طرف مقابل ببینید شما خو این انیمیشن بسازید برای کل مردم دنیا از چه نمادایی استفاده کنید از چه نشانهای استفاده کنید از چه نماییه شمایل تک تک رو باید بچینید این فیلم من کجا میخواد بیشتر فروش بکنه من یوسف و پیامر رو ساختم برای کشور اسلامی لزومی نداره که نمادهای غربی استفاده بکنم که تن... خودم و دست خودم مبانه کارگردان چیکار کار کنم؟ ببندم من چون من کشور اسلام میشنس... دارم کار میکنم نماده های اسلامی رو چونستایی میکنم چهره هایی که از اصلاح رو بکنید بقید چه... چهره ها نمادینه یک فیلم بود ده هزار سال قبل از میلاده. شما این منجی یک از اروپا میاد یک نشاده تمام آنگلو سکسونه. درسته؟ خب این نماده ما امروز یه نفر باید چشمان آمین میمیم چقدر شبه خارجی هست برویم چقدر شبه خارجی هست یه باید اروفاییه یه بارما خودم میم سن وقتی یک هنرمند ما میاد از این چهره استفاده میکنه باید مراقب باشه مثلا در فیلم حضرت مسیح که ایرانی ها ساختن اسم درستش چیه بشارت منجی شما می‌بینید حضرت مسیح موهای چی داره؟ بور داره. حالا ما با این کار نداریم. یه وقت یه موقعی هستش که این حقیقت تاریخی ها یعنی موهاش بور بوده طرف مثلا اینجوری سالی خوماده. اما اگر این نباشه این فقط نمادین بشه. چرا مسیح رو از خودشون بدونن این فیلم من نفوذ کنه یا نه؟ یک گاف هنری چه بسا. بعد این بیزچی بشه؟ آنالیز نمادین بشه. بازان برخی از اشخاص نماد میشن خودشو میشن نماد شما برای زدن این نماده ها باید کار کنید یا اون فر رو تو کنید از اون نماد یا اون نماد رو تغییر بدید یا یک جایگزین برش پیدا کنید این تو دنیای سیاست امروز ما داریم میبینیم میگن موزهلاته باشه، اما نفهمیدند که چطور اینو انجام بدن این, را بکن. در این ما در دنیا شاخصه نماد مقاومت گیر دادن به اسرائیل همه شما دیگه کشور عربی سرچ بکنید ببینید عجب بابا نگاه از حرف ها مثلا آ آ زمانی که به ترکیه میره میگه دیگه ترکیه ای ها اجازه ندن مردم بیان یعنی ماجرا رو پیچونن واقعا مسیر رو تغییر دادن فلان به بهمان این چیزا این فایده نداره تا کی میخاد مردم بگیرید باید چیکار کنین کارو تغییر بود یک گاف بزرگ مثل با چشم انجامید دعوت از ملک عبدالله اردنی این فاتحه سیاسی بود به نظر برای چی؟ تو نواد مقاومتی او ملک عبدالله نماد خونریزیه این اصلا در اینکه که سهیانیستن و فراماسونل زادن احد شک نداره پدر اینو میشناسن که چی بوده پدر این کسید که با صدام اولین گرول جنگ و صدام شلی کردن مادر یهودی انگلیسی داره این آدم با شما اینو میخواه خود خود خوب کرده. همزمان به یکباره شما میبینید که اردوغان به عنوان یک نماد جدید رو میشه. توی اون جریان برمیگرده به شیمون پرز شروع میکنه فوش یک ثانیه وان مینیت وان مینیت همجوری با لحجه ترکیه‌ای غریبه جا داره می‌ریسه. یه دقیقه اجازه میده تو قاتل کودکان هستی تو فلان. برمیگرده مردم شدیدن استقبال میکنن توی خود فرودگاه هستن نمی‌ذارن برسه به کاخ ریاست جمهوری. توی فرودگاه ازش حمایت عجیب غریبی صورت میگیره. و تمام رسانه هامینو نشون میدن نتیجه جالبیش می‌جاس. هر ترسانه استعلی می‌سی. برای من خیلی جالب بود چرا رسانه اوم بده ادغوانو نشون بده این استقبال داشته. زمانی که تو جنگ می‌صدار، روزی قصد داد تو کشور ما بده نماز ها آوری بود تو ترکی هر روز راه بود و رسانه‌های کربن نشون میدن. آل جذیره یعنی مال استعلی می‌ساز. سوکش که هم ما بیش می‌گیم آل ابریه، مال او حال حالا صوت می‌شه تمام که انتقال دادن ما نمادها رو نفهمیدیم گافت دادیم آقا از این رکتر بگم در حالی که حضینه شد که به شمهور بشه نماد مقاومت باید زمانی که نماده استفاده میشد، ما هزینه دادیم تحریم دادیم کشیدیم غیر دادیم باید بکنیم از این بهتری استفاده بکنیم باید یک, یک گروه آنالیزور تو کشور باشن این مسائل ریز رو رفت بکنن در وزاد خارجی ما باشه در دستگاه امنیتی ما باشه در دستگاه فرهنگی ما باید باشه در دانشگاه های هنر ما باشه شما این روز که این افرادی که میتونن بشن نماز خیلی ساده اینا میتونن اینجور بکشنش کنیم خی بدون نشازیم. بعد بارها پیشنهاد دادم گفتم تا وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس هستن حتما یه کتاب علیه صهیونیسم بنویسن. منطقی. یه کتاب چیکار بکنم؟ بنویسن آقا دلیل من برای هولوکاست اینه، برای فلان اینه، دلایلشو بیاره. همه دلایلم هم چیه؟ خود اروپایا گفتم. روزگاری کتاب نمیشه هولوکاست. خود اروپا ها. زمانی که این چهره نمادین شده، رسمانی شده، ما باید از این بکنیم؟ استفاده کنید فرض بکنید شما میره اروپا میره امریکا رسانه ها منتظر همه مردم این دفعه چی میگه فلان اینجوری خب مخصوصا توی دو سال قبل این جذب بیشتر بود شما فرض کنید جوی مورد شما بیاد بگه که من البته بابت تمام این مواردی که عرض میکنم کتاب هم نوشتم، سند هم داره به خاطر بحث مالی هم نダشته پی تو اینترنت کنید میدونید چه میشه که میبینید چه کار چه نمیشه کرد یعنی ببینید نتیجه چون این کاری از حد تصور من خارجه من آدمی هستم کم تحلیل های سیاسی دارم هم واسه فرهنگی رو پیشو برم واقعا از حد تصور من خارجه چه سردم رو گوشم رفتار بحثایی که مردم دنبالشن شما ببینید وقتی آنالیز بکنید به یک از مردم می‌پرسید که آقا بهترین ماشین مورد علاقه شما چیه؟ می‌بینی یک کیپ خواد تا موقع من از بنده تا موقعی که در ایران از دو گزاره مردم خوشش میاد یعنی ما به بالندگی فرهنگی نرسیدیم. یه پیکان، یکی پیکانی که دیگه رضا خانم. دیگ دو میگه بابا طرف دیکتاتور اومده ذات کشته بیسواد پدر عمر رو درآوردی میگن عجب بودی. یعنی چه زربوالا سر من باشه. خودش داره کد میده دیگه بنده خود داره پالس میده داره نماد معرفی میکنه. زربوالا سر من باشه جواب میده. خب من به عنوان یک خدمت شماست کنم کسی کار فرهنگی می انجام از این بهتر کت بگیرم مردم ها پیکان خوششون ماده برم آنالیز بکنم شربان شناسی کنم این مردم رو بعد بیام بحث بکنم جریانی نیست عجب جریانی نیست متاسفانه بحث بردان در بیان اساسی دانشگاه ما هم هست چی می میرم برای رضا خان میگم بابا بیا اساس زین اسلامی ایرانیز رو بشور برناس یا قربی نگاه کن با هیچ گذاره دموکراسی جور در میمده این با هیچ گذاره دموکراسی و حقوق وشر جور در میمده چرا خوشش میاد؟ این یک نشانه ها داره میده رفتار ها، انتخاب های یک مردم همش نماده همش نماده و اونجا رسد میشه اینها همه اینا رسد میشه تک تک اینها رسد میشه زمانی شما یک فرد رو چهره میکنی میشه نماد بعد اون میاد زحمت نمیکشه اون فردی رو که شما چهره کردی میگیره میبره تمام شد رفت نماد تا رفت اومد توی این مسائل بعد رو دست گذاشت ؟ هنرفیشه معروف مجریه معروف خاننده های معروف چه تو چشم مردم؟ این آدم شخص خودش هم جوری اتوران نماده شما به یک باره میبریش اون طرف این نماده یه چیزی بوده میگه اونو داشتی قرار دادی دیگه حالا از من این چقدر جالب میشه کار کرد استفاده نمی از این بحث دروغ بگیم به خودمون کلا سر خودمون بذاریم نه میسینا همش نه ببینید بحثاً اینه ما بی ارزگی ها و ضعف خودمون رو به حساب قدرت دشمن نه بیزاریم. واقعا نمیره ما برنامه‌ریزیات بشه باز تک اشخاصی که شما چهره‌اش می‌کنه باز برنامه‌ریزی باشیم نداری که به یک بار این فاجعه در فوتبال ما به وقوع می‌پیونده برنامه‌ریزی نکردی اون افرادی که چهره‌شون کردید افرادی که نماد شدن الگو شدن اسمش روشه الگو شده دادن نداری برنامه‌ریزی نماد بریم سر بحث روانشناسی رنگ‌ها. اینجا که انشالله من تا جایی که میتونستم خلاصه گفتم و سعی کردم مستقای مختلف بگم که اون بحث تئوری جا افتت. بحث روانشناسی رنگها دنیاییست است. من نمیدونم چجوری میخوام تو نیم ساعت اینا رو بگم. واقعا خدا نمیدونم. اما چون اینو خبر دارم که در های هنر اینو تدریس میشه. الحمدلله ما زیاد خیلی رز وارد نشیم. گزاره های استفاده میگیم برای این که این بحث افاده عموم هم داشته باشه استفاده عمومی هم بکنم بکنن یه گزاره های خیلی ریز رو شرم دیم برای دانشتی هنر رنگ سرد و معرفی کردن زشده خب اما مجبوریم ببینید انتقال معانی فرهنگی و فرهنگ ها با نماد رنگ و شکل خصوصا رنگ و شکل بسیار رایجه اصلا مدلی ما داریم خدمت شما نایداد داد که اصلا یک مدله برای انتقال مفاهیم از طریق رنگ بشید اون بس میشه توی پایان های دانشی بعدا میبینید رفرنس دادن استفاده کردن یک مدل است اما واردین بحثا نمیشن ما اینو قبلا جلسه قبل عرض کردیم که من و شما در خود طبیعت یک سری ها رو میبینیم که نشانه هایی است نمایه از شمائر نماد نیست مثلا این هیبونای خطرناک زرد، نارنجی، سیاه دارن درسته؟ به صورت طبیعی همچین چیزی رو آیت شده فلیزا ما میبینید نارنجی، زرد، قرمز، سیاه درسته؟ شما میبینید که همین بحش با ما تی خود رمانشنس رنگان خودمونم استفاده میکنیم میخوام دکمه خطر تر روی کنیم قرمزش میکنیم چراغ چراغ زرد، ایسیاد همش بهش در احتیاض کنه یعنی قرمز بودن نشونه احتیاض در, در ذهن تداعی می‌کنه یعنی بحثی گرفته شده پس چون طبیعت هستش رنگ سبز و آبی رنگ امنیت مثلا چون در طبیعت وفور دیده میشه یک آسمان آبی همیشه همراه میتونه. در مورد اینکه که بشر که اولین بار از رنگ ها استفاده کرده مباحث زیادی خصوصاً در آزمایش های کربون که انجام بدن از این نقشه ها که بتونن نارا آنالیز بکنن چه تاریخی کشیده شده مباحث مطمئن بردان عجیب قریب مثلا مال چهل سال پیش. که انسان ها از اکسیدهای های هماتیت و مگنکیت استفاده می کردن و خدمت شما کنم در دوره انسان های هموسطاپین. حالا ممکنه ما تلفظ خیلی تخصصیش رو هم غلط بگیم برای کسی که دیریش نشناسه. من شما عرض بکنم که من میگفتن استفاده می‌کردم. بشر از رنگ خوشش میاد. میره سنگا رو میکوبید. زنگ آهن‌های، سنگ آهن زنگاشی میگرفت میکوبید با آب، با تیم کشیم که نقاشی کردن. خوشش نمیومد از این. برای انتقال مقایم استفاده می‌کرد. بودا. و با و فوشن با برخورد داشته دیده. نوشته علمی فیزیکی رو بگم بریم سراغ بحث اینکه ما رنگ‌هایی که می‌بینیم تیپ بین فروسرخ تا فرا بنفشه. اصلا فروسرخ میخوره به منتاله های گرم و فرا بنفش منتاله رنگ‌های سرد. اصلا همین گرم و سرد اون بزرش حالا چه های مکمل من در مورد این بحث خام که نمونه‌های طبیعی شو که شاهکار خلقت خدمت شما arz کنم هیچ نمونه‌ای به وقت بکنم حداقل نشون خواهیم داد خدمت شما arz بکنم که رنگ های گرم س... میشن کدوم ها قرمز، نارنجی، زرد، رو رنگ های اصلی بگیم حداقل روی هفت هفت طیف رنگی که می‌خوایم بگیم روی همون به قولی اسمی که از قدیم آرسی کردیم قرمز، سانب، قرمز، نارنجی، زرد خونزه سه سوز آبی نیلی و نفش این هفرنگ هفرنگی, هفرنگی کمان اما تو آنالیز رنگی معمولا اینو میبرن روی عدد زوج که بچنن تخصیم بلیش راحت بشه مثلا افزش میدم به دوازده رنگ قرمز و قرمز تا آخره بلیش باید اینها رو به هم دیگه میچست چون ویژگی از دوازده, دوازده هم به دو تخصیم میشه هم به سه هم به چهار هم به شیش این تقسیم بندی رو به لحاظ زمانی شما هم مکمل های متساوی ساقین استفاده کنی یا متساوی الاضلاع استفاده کنی یا مکمل های مربعی، مکمل های مستطیلی استفاده کنی کارت رو آسون میکنه به خاطر این بردن 312 دوازده رنگ 12 رنگ این ویدا زنگام که دوازده تا اون یکی رنگ سفید داره غلطه چرا فقط میشه رنگ سفید وجود نداره نه نه سفید باشه نه باید سیاه باشه حالا می‌رسیم که اون بحث خدمتتون رسونم میشه پیشش رئیس صاحب خودش وسط اینو قرار میگیره اما با مبول رنگ سرد نشسینش. درسته؟ اینجا بستگی به پایه سبز داره. اگر رنگ سبز پایه زرد داشته باشه، گرمه، اینجوری اینجا از تضاد بازات. در مورد رنگ ها گرم خب بحثو موارد زیاده می جمله اینکه خدمت شما کنم نقاط قوت این که این رنگ‌ها القا کننده گرمی و راحتی هستن، تضاد تو خیلی خوب نشون میدن، خیلی تو چشمم، اینطوری عرض اما نقاط ضعفش هم همین زیادشونه. اگر در یک اثر هنری رنگ‌های گرم زیاد استفاده بشن نقاط ظریف رو دیگه نشون نمیده سطح توقعات بصری بیننده رو بالا میبره که نسبت به رنگ‌های خونسا که اصلاً به طرف واکنششو نمیده خدا این خطرناکه بعد درست استفاده شه ردیوای سطح نیمه آبی چرخه رنگه اون هم که عرض کردیم سبز آبی نیلی بنفش و غیره حتی رنگ‌های ترکیبی که از اینها میتونه وجود بیاد نقره رنگ سرده قبل استفاده است. نقاط قوت این رنگ ها آرام و راحتن. آرامش بخشن. طرف نگاه میکنه به آرامش میرسه. اصلا رنگ آبی رنگ معنویته. رنگ، رنگ زیبایی است. حالا خارج از مباحث پرسپولیس و استقلال. خواهشاً اینو بذار کنار چون هیچ ربطی نداره اینا. اما توی قبول رنگ چرا؟ تو روانشناسی مهمه. یعنی اگر کسی از پرسپولیس خوشش میاد چون قرمزه‌، کاملا میشه آنالیز روانشناسی کردیم این اگه از استقلاق خوشش میاد چون آبیه میشه آنالیزگر اما اگه بازی بازیگونا این چیزا خوشش میاد که هیچ همیشه یه سال از طرفدرا رو بپرسید میگه اگه تمام بازیگناه پرسپولیس بدارم استقلال استقلال بدم پرسپولیس تمام کادر عوض کنن. شما پرسپولیسی میمونی یا نمیمونی هر جوابی بده خودش متوجه میشه که تو اشتباه بوده فعلا دکتر اگه استقلالی میمونی یا نمیمونی هر جوابی بده میفهمه یا میگه آره یا نه دیگه اگه بگه آره که نشانه حماقته نه یعنی طرفدار رنگم طرف رنگ طرف بازی نیست اگه بگه نه میگه تا الان تمام بازیکن پرسپولیس سازانم قسم بخورم از زمانی شده تا الان همشون عوض شدن چرا شما یه بازیکن خوب تو استقلال نمیبینید درسته بعد دیگه بازیکن خوب منتخباته باشه دیگه پرسپولیس میگه نیسته شده چرا اصلا خو... های نقاط قوتش رو حد می‌کردم کدومش شما اصلا رنک ها ممکنه که به صورت غیرصنمی بی تکلف و دیده بشن برای زمینه خیلی مناسبه. میان برای زمینه انتخاب کردن بومتون از رنگ هاش چه استفاده سر می‌کنین؟ سرد استفاده کنی نقاط ضعفشون این رنگ‌ها مابادا حس منفعلانه چیکار بکنه؟ تضعیف کنه، حس پس زدن. در مورد شاهکار طبیعت صحبت کنیم که خلقت چه جور این در شما خوراکی آبی می‌شناسید؟ حس خوردنی مش آبی باشه. طبیعیه، نه ژله‌برداری آبی درست بکنی. آب رنگ نداره میگن ظاهرم هم این گوله در جلش آبیه آه. رنگ نداره آب که جالبه چه از غبله میخوام بگیریم ما میرسیم تو روانشانش رنگ های خونس که در طیف رنگی وجود از ترکیب رنگ ها به وجود میان و بسته به هنرمند باری که از اینا استفاده بگن مثل رنگ سیاه سفید رنگ سیاه و رنگ سفید رنگ خونس هاست خدمت شما ع تا قهوه هم باز به پایش رفت داره ها قهویت. چند تا ما رنگ که دنیا بی نهایت بی نهایت اما میدون شراغ کارورد رنگ ها کارورد جمعا خدمتنا سندکیقا به روان شانستی رنگ ها دکتر ماچلوشل توضیحات جالبی دادن در مورد هر کدوم این هم فصلها مطلب نوشته شده نه فقط یه مثال برای کسی که ما. ترجمه بیدا عویزه خانم بیدا عویزه اینو می ترین مثلا تایپ بکنید ببین حالا چطور دستتون هست مثلا چنین چیزی یا نیست نمیدونم مثلا همین کتاب هست اینا قرمز به لحاظ روانشناسی چه کاربردهایی داره من رنگ مکملم نگفتم رنگ مکمل رنگ‌ها همین دیگه رو کامل می‌کنن و در مقابل همدیگه دقیقاً قرار دارن دقیقاً توی طیف رنگی مقابل هم قرار دارن شما اگه مدت مدیدی به رنگ قرمز نگاه کنید چشماتون رو ببندید چی می‌بینید احسان چون رنگ مکمل قرمز سبزه. یعنی خود ذهن ها به نیاز داره میسازدش خیلی قشنگی خیلی جالبه میسازدش و اینو میخواد چون میخواد خسته نشه این چیش خسته شه اگه ما اینا رو میفهمیدیم زمستون نور اتاقمون با تابستون فرق میترد نور خونمون فرق میکرد ما تو زمستون باید رنگ خورشید رو زیاد بکنیم نام هایی که رنگ گرم دارن باید زیاد بکنیم و یعنی سوخت و ساز بدن کاهش بیدا میکنه بعد بخاری زیاد بکنیم، با افضایش یک لام کاری میتونی بکنی که سخت و ساز بدن زیاد بشه بخاری رو کم بکنی از پزشکی پیزشگی داره رنگ ها قرمز شدت و زیاده رویه مذهر گرمان قرمز رنگ عشق میگن مشکی رنگ عشقه اما در قرمز رنگ عشقه بابا جالب مثلا رنگی روانشناسی رنگی چی مید را تا... چیزایی که من وجود الان نمیدونم بعد چه معنایی اومدن چه اساسا زرد هم نزدیک به دادن و گرم شد از دست رنگای گردشات از جلد گفته باشه اما خب تفاوت بین رنگ زرد و قرمز خیلی زیاده رنگ زرد بی خواسته دیگه داره که معمولا بحثش میاد نماد فداکاری خشونت خون آتش افراد گروه A معمولا از رنگ قرمز خوششون میاد خود دو افراد گروه A و گروه B گروه ای افرادی افرادي که سوختوساز بدنشون زیاده موقع صحبت کردن داشتشون زرد تکون می‌خورن، هیس میخورن, میخورن. جوش می‌زنن. این افراد احتمال این بیماری قلبی بگیرن بسیار زیادتر از افراد گروه ب. گروه ب همون که هیس میدن، آدمو سکت آدم آدمو تکون نمی‌خوره، بخواد بری کار از دستش بگی انجام بدی. من خودم گروه ای هم میدونم. خواش بدی تظری کاري انجام میده، شول، آروم، فکرت میده بخواد این دستش بگیره بابا اینم ساعتی کامپیوتر میخواد بعد دو ساعت از این موسی میچ می میچم با لاغ است آ اونو بشت ب زندگیه. معمولا افراد A به شما که شه کو با اینکه حسص میخورن وقتی کاری که برای کسی دیگه کو انجام میدهه معمولا افراد A معموللا آقا اینا معمولا آیا پچین س در تقط ای به کسی ای ندید معمولا افراد گروه A بندگوون خدا پنگ رم رو دوست دارم. این گونه اشخاص تند و سرکشش بعدا عجیاً عجله در اعضای گرنگی قرمز و نوع ای هستن خیلی زنگ‌زن دوست و نوع ای هستن بیشتر خودپرستی هم بعضی در اینها دیده میشه یعنی حس کرامت نفس خودشونو دوست دارن اما چون رفتار عجوله عجولان است واکنش عجولانه میشونه خوش‌قلبم پس بزرگتراوی رو گفتم خصوص الا خصوص بالاخره رهاشمسون میگن دارای خصوصات خصوصیات متضاد بیان خیلی تو چشمه رفتار نرمال نیست یهویی عاشق میشه یا متنفره میشه ازت بیزار میشه که میخواد قیافتو نبینه خب اما این مزخرفاتو به زندگی خودت نکشیدا موقع خواستگاری تو آجر رنگی خوشت میاد من آجر رنگی اینا دریدا واقعا اگه بخواد وارد زندگی گفتی نه قطعی نیست به عنوان مثلا بالا بله من خودم از هم از رنگ آبی لذت میبرم هم از رنگ قرمز لذت میبرم یه جای آبی زیباست یه جای قرمز زیباست حالا مثلا یکی که چه چه رنگا همه رنگا خوشم هم میاد والا چی بگم؟ همه رنگو ها قشنگم بس دیگه کجا استفاده بشه نه حسما باید بگی من ببینم تا زنت بشم یا نشون اگه میخواب با رنگ یکی زنتون بشه و با رنگ ازتون جدا بشه همون بهتر ست سال سیاه نرید همون سیاه باید. رنگ صورتی اینو به عنوان یه مثال از زنگ های اصلی نگوردم یه دنه مثال میزن توه همان ویژگی های رنگ قرمز منطقه چی؟ رقیق تار. خیلی جالبه رنگی که رقیق میشه ویژگی ها و خصوصیات هم رقیق میشه عجیب از در کنفتیم در طریعت خدا به زیبایی تمام شاهکار خلف کرده باید دید به با عنوان مثال اینکه خونه ما قرمزه به خاطر چیه گلوگل های قرمز خونه ما و اگر خونه انسان در حالت اصل قرمز نیست شما قرمزند. که هیچ ربطی بین رنگانه های گرمز و خونسازی وجود مطلقا نداره پیزشوه بپرسید. اینکه که آلوالو خونسازه، شاه توت خونسازه، توت فرنگی خونسازه، گوجه فرنگی خونسازه اینان وقتی شما میشنبی برای عجیبه این شاهکار خلقته یعنی داره با رنگه ها من کد میده که اگه در مورد این خونه خوراکی لازم داری باره سراغ این میبهام خیلی جالبه در مورد بحث تغذیه و نمادانم قضيه بحث شده اسم ما وارد نمیتونیم بشین دیگه چون سودی هم چندان نده رنگ آبی نشان نظم نشان پشتکاره نش... رنگ آبی رنگ کنترل هیجاناته آرامشه کسی که خودش رو میدونه خودش رو بگیره اهمیت به احترامه کسی که به احترام دیگران احترام میذاره رنگ تنهایی است رنگ اوج به سمت آسمان آبی رفتن همه رنگ ها بر خودشون شکلم دارن ها. خصوص با سه رنگ اصلیه قرمز، آبی، زرد. قرمز، آبی، زرد این سه رنگ اصلی های خاص خودشون دارن. یعنی این صدا رنگ اصلیم نه. از این جهت با شکل در ارتباطن از این جهت میگم. خدمت شما عرض می‌کنم ببینید من هیچ رنگ رو به عنوان پای رنگ چرا میشه بحث کرد؟ خب؟ اما به عنوان چه هیچ رنگی رو رنگ ترجیح داد؟ رنگ آبی رنگ کم اشتهایه. اگر کسی بوش میگن آبی رنگ باشه اشتهاش چی میشه؟ بله کم میشه نکته شاه کار خلقت اینه گفتم خوراکی آبی تا را دیدید؟ گفتید نه چرا؟ دونستید که حتی انسان از خوراکیایی هایی که آبی رنگن هم تازه نداره به خاطر رنگ سم میشدن و فساده هر قضیه وقتی فاسد میشه رنگ آبی به خودش میگیره جالب ما انسان‌ها به رنگ‌ها اونقدر به صورت قریزی و فطری ریزی شده این که میگم شاهکاری است از خلقت این که بارها در قرآن خداوند فرموده تفکرون فی خلق السماوات و الارض ببینید این گوشمون چه جوری بونه خدا میبینید نمیخواد بشین اسوات هنن نم الی معلولی برهان نظم هر جنا رو ببینید خدا میبینید خدمت شما ازونم همین بسته افراد بس بر مبنای رنگ چهرهشون به ما کد نزدیک شدن یا دور شدن میدهند یک فرد وقتی بیمار میشه رنگ چهرش جوری میشه که ما تمایلی به نزدیک شدن به این فرد نداریم و این برای جلوگیری از اشاعه بیماری است ببین اثر رنگ تا کجاست رنگ آبی رنگ کاهش ضربان قلب و حرارت بدنه شما اینا زنستون رو با یه رنگ ترسیم بکنید اونایی که من علماً اصلا سفید رنگ خوبی نیست. نه چون زنستون برف میاد میگه یعنی نمادین برس میکنه اما به خاطر رنگ خود صحبت بکنید ببینید به رنگ سفیدشون تمه آبی قاتیش میکنن برای اینکه سردی رو نشون بده و رنگ آبی رنگ سردی است واقعا همینه نکته جالب اینجاست که ما عرض کردم می‌تونید تو همین زنستون با تغییر نور اتاقمون و خونمون بحث اقتصادی را می‌زنیم بحث سلامتی خودمون وقتی اینها به صورت طبیعی و درست فراهم نشه بدن من شما هورمون‌های رو ترشح میکنن. یک سری چی هورمون‌های رو ترشح میکنه که اون نبود رو جبران کنه اینها یعنی استهلاک این هورمون‌ها باید خارج بشه اینها همش یعنی عواقب و اثرات یعنی طرف می‌تونه و تنظیم این رنگ‌ها مسئله رو, حل رو کنه. رنگ ارغوانی رنگ عرفانه، رنگ اسرارآمیزه در این ویژگی با فیروزه‌ای اشتراک داره. رنگ فیروزه‌ای هم رنگ رنگ رنگی هاست رنگ امور معنویه و حیاتی. رنگ قهوه‌ای رنگ قابل اعتماد بودنه، رنگ مقدس و باثباتی است. رنگ عملگرایی است. به خاطر همین شما می‌بینید خود نظامی ها از چه رنگی بیشتر استفاده کنن؟ قهوه‌ای خیلی جالبه ازن تیمه این برامور میکنم کمو زیاد میکنم برای چی از خودشم بپرسی چه بسید رو متوجه نشده روحیه نظامی اینو میاره چون روحیه باسواتیست روحیه نظم داره روحیه ایسی محکمه ترست این ناخداغاه از این رنگ خوشش میگه رنگ خاکستری رنگ احساس بینیازی اقلانیت تعدل و بزرگ شدن چون ترکیبی سیاه و سفید خیلی قشنگ این رو انتقال میده به خاطر همین در ادارات معمولا از رنگ خاکستری برای لباس فرم آبی آبی که به خاکستری بخوره استفاده میکنن که حس احترام رو در عرب و وجود بیاره در مقابل طرفی قرار بگیره. شما بعدم یک دوی بانک ها سندلی گذاشتن این نشانه احترام به شماست یک بعدشینه، یک بُعد اثر روانشناسی است که بررسی شد زمانی که طرف از بالا به شما نگاه میکنه خودش رو چی میدونه؟ موهق میدونه این همین حسی که هم شما نسبت به دارید. اما زمانی که طرف رو درون رو نشستی، یک برسیست و اینکه شما اصلا بالا سر باشید بحث دیگری است. الان دیگه در برخی از چقدر تفاوت میکنه که شما کلاس درس رو بر رو به پایین برای استاد بذاری یا برعکس باشه؟ استاد یه تکو بالاتر باشه خیلی تفاوت داره این چه مباحثی رو میشه؟ ریسیت من باشم همه سیستم رو پیاده میکنم آم. که طرف بحث احساسات درش حاکم نشه امروز در دانشگاه ما مباحث احساسی چگاه میکنه؟ بیداد میکنه عقلانیت در متاسفانه تحجره متاسفانه من این رو در مناظره های دانشی میبینم این باید مباحث رو کرد؟ چگار شد و هنرمند چند سیست که از مباحث احساسی بیتونه استفاده کنه برای بیان اقلانیات این هنرمند و آرام آرام مباحث رو گره بده رنگ سبس، رنگ کنجکاوی رنگ طبیعت، رنگ تازگیه نهاد اشتراک فراوانی با دیگران داره کسی رنگ سبز و دوست داره و جانب تو توی طیب رنگی دایگران وسط قرار میگره توی هفت رنگ تعادل رنگ دینه رنگ کاهش استرس افزایش بهره حافظه است خیلی جالبه کسایی که از رنگ سبز استفاده می‌کنید شما که کنکور دارید مثلا استفاده می‌کنید علی چکنویس چر چنویس اگر سبز باشه نمیخواد تیراچه گاز زد کنه چشم ما این تن یه گوشه هست این اثر اثر بر هورمون های بدن داره و افزار اثرش نه تک تک اینها اثبات شده از زمان کتاب معرفی کردم باید بخونید و از پزشکی شده اندوزیگری کردم هورمون ها رو ترشحش رو کننده رنگی چهار رنگ و نمادام یک چه چیزی نیستش رنگ سیاه رنگ خوشدوگیه رنگ زرافت تبره رنگ احترام به دیگرانه رنگ چماله اما رنگ ترس هم هست چون شبه مثلا در مستروباسان خود بدونه که رنگ سیاه رنگ تولد بوده به خاطر چی؟ به خاطر که بعد از سیاهی شب همیشه چی می شود؟ تولد خدا خوشید دوباره بود تولد روز بود به خاطر همین چرکسی شده دنگوی ها می گفتن هر دقیق رنگ رو این نینیم تولد میده رنگ بزرگ شد در وقت سر دوست میخواهم دوباره درمست رنگ سفید، رنگ پاکیست رنگ محصولیته، رنگ تمیتیه رنگ افزایش فضای، رنگ سرما هست بودی اونم فقط به خاطر بحث در ها این نمادیم گره خوردنشه وگرنه نه روانی نداره از این حس آبی ار داره شما خدمت شما از کنم حالا تو مقاحب مربوط به جلگاهی بستری توضیح خانیم داد. زمانی که شما یک مربع سیاه رو توی رنگ سفید میذارید افزایش به شما حس زیاد شدن به تو دستنده. اما اگر مربع سفید رو توی زمین سیاه میذارید احساس میکنی میخواد جمع بشه افصلا. آیا تفاوتی داره تو اندازه؟ نه. خبی اثری داره بر روی روان و رو ذهن انسان. چقدر اون هنرمند و از آگاه آگاهی این این از اساتید مسائل اینا رو سیما بسیار رو از هنرمندون بی آن فیلم‌ها رو آکادمیک بدونن خودشون دارن استفاده میکنن چون گفتن غریزی و فطری بسیار از سایر چون خیلی از هم نشانه است نماد نیست خانوها معمولا رنگ‌های فانتزی و مردها دقیقا عکس اون‌ها رو دوست دارن اینم تفاوت روانشناسی مرد زن در مورد خاصیت اثر رنگ یا پسیکو یا پسیکو شیمی رنگ در مورد این مثال رو خدمت شما عزیزان عرض کردم خدمت شما عرض در مورد اون بس عرض کردم که مثلا یه مربع سفی در زمین سیاه بزرگتره یه مربع خاکستری روشن در زمین سفی تیره به نظر میده اما همون خاکستری روشن در زمین سیاه روشن یعنی اون پس زمینه به ما چی میده میکنه که این رنگ ها چجوری در کنار همدیگه استفاده کنم کاربرد رنگ ها در بحث ارگونومیه. اینکه در صنایع ما رنگار رو چطوری استفاده کنیم؟ یک دکمه که خطره رنگ سبز بذاریم ها؟ نه، رنگ سبز یعنی برو دل طبیعت. این حتما دلفن میزنه. حالا یه جا شما یه نفر رو ول که دکمه رو بزنم و گندم بم منفجر میشه. سه تا رنگ بذاری جلوش، او بر همین نمادها ها خود خارشه. بر خورد عقلانی؟ نداره. چرا دایره می‌ذارم دکمه رو؟ دکمان چیه؟ مربع بعضی جا مسلسه این هم ارتباط داره عزیزان رنگ آبی دایره رنگ آبی دایره آسمان رنگ زرد چیه؟ نمیشنم مسلس چی؟ رنگ نمادی در باستان با عنوان قارمشون می دادن اما رنگ مربع قرمه چی؟ زمین این چه هست؟ ما از هست؟ فلیز شکل گیریه شکلی مثل هرم مربع نماد زمینه یک نور از بالا میخواد حقیقت رو به تابونه مربع چون چهار بج داره اون نور لاجرم چار بج میشه. اصلا و عباده مخروط هیچگاه نشان دانده همچین چیزی نیست مخروط از عالمی به عالم دیگره چرا چون تنچیه زمینه چه قاعده دایره است خودش باز آسمانه مثلا از عالم نمیدونم ببینید یه باز عوالم داریم اون بالا مالا عرش و کرسی و لاهوت و و فلان که ما زیاد واردم نیستیم سیستم مباحث ها از عالمی به عالم بالایی دیگره فرضا وقتی این درست استفاده نمیشه اون حس رو به بیننده انتقال نمیده در مورد رنگ‌های مکمل صحبت خیلی سریع خدمت شما عزیزان داشته باشیم فایل رو باز بکنید عزیزان خوب نه ببینید تا من ببینم عکس دیگه هستش اونجا نگاهی بکنم خودم خدمت شما عرض بکنم که, که توضیح نزده باشم. مثلا دوستان شما سی رو باز بکنید تون بحثش گذش منشون ندوده متاسفانه نگاه بکنید مثلا در کارتون دامبو شما می‌بینید که خیلی زیبا از مفاهیم رنگی و خدمت شما ارز بکنم مقامی دیگر استفاده شده مثلا می‌بینید که مادرش که مهربونه و به خاطر دفاع از بچهش به زندان می‌افته، کلاهی شبیه عرقشین یهودیان داره خدمت شما ارز بکنم خود این فیلم مادرهای جالب داره بری تصویر بعدی در عموم این فیلم یک موش هستش که چیکارش میکنه؟ کمکش میکنه موش قبلا کدگذاری شدید. اون موقع که دامبای 941 تولید شده اون موقع بوده خب این بحثا بوده و پرچم اسپانیا رو هم بهش اشاره شده خیلی زیبا خیلی جالب پرچم اسپانیا به عنوان معمن یهودیان در اروپا شفه جزیره ایبری بهش اشاره شده به تاثیر برد شما رنگها رو میبرگردید بله اون دینه اسمش چیه گردن که نمیتونه باشه دینه چی دوره گردنش همونی که داره ی همون یقه یقه قاعدتا ادامه هم داره خدا. خدمت شما از بکنم میبینید با پیرهن موشه کلاه زرد نوک دوباره نارنجی رنگ قریبا و باز با همون یقهی که حالا این بحث کار شده و در مورد دامبو این بحث وجوده که آخرم شما میبینید که این به عنوان یک سرگردان یهو سرگردان معرف میشه آخر با گوشاش پرواز بکنه کار بسیار عجیب قراره یه فیل با گوشاش پرواز میکنه تازه نمشاری پرچم استرالیا میذاره بالا چه سیرکی این مباحث خیلی زیبا کار شده عریض موعود در تورات با به شکل خورشید نشون داده اصلا سهیون یعنی کوه پر آفتاب بازگشت اینا به عرض زایون زایون نیست سهیون نیست قدرت شoauthون باران میشن شما از تو جوجه اردک زرد به سمت خورشید میره چوری شاپین بنده خدا برنامش تموم میشه راه یه راهی یا میخواد بره اون لوک خوش آخرش همیشه غروب برو سمت خورشید و این مباحث رو اینقدر زیبا اینها کار کردن یا چون این نیتش فراموش کردن بگم ها. چون مهم نیست خیلی هم تو سخنرانه تکرار شدی که لوز شده من زیاد واردش نمیشم مثلا مادر که نماد ارز زم... نماد زمینه اصلا به لحاظ زم... زمین برابر است با موجود مؤنث برای اینکه باربری رو انسان در زمین دید، رویش رو در زمین دید، گیاهان از زمین در میان و خورشید شد پدر. خدمت شما عرض می‌کنم که نور خورشید هم مواحثی پیدا می‌کنه که در بررسی نماد آبلیس سه تا تخصصی اونجا کرد کرده که چی میشه. علی حال اینها می‌بینید همشون بنده گونه خودی که باباشو گم نمیکنه همه دنبال مامانشون می‌گردن تو این کارتون‌ها. این جریان چیه؟ مامان سر و هوا بوده، اینو ولش کرده. این جریانات داره. چه اید دارن کار میکنن، ریز وارد بشن. حالا برید سراغ رنگ ها برید، تصویر بعدی بزن ببینید در مورد رنگ‌های مکمل شما بذارید من این تصویر بیارم که اونجا رو مجونه شاهی نگاه کنم. شما میبینید مثلا قرمز و سبز در مقابل همدیگه قرار می‌گیرن. گفتیم یک نیاز بصریش در انسان، ما به صورت متمادی به رنگ قرمز نگاه بکنیم که شما رو ببینیم، رنگ سبز خودمو می‌بینیم. چون نیاز داره این تکیه بشین فرصه. کنتراست بالای دارن. رنگ های که مکمل هم دیگر. انرژی هم تراک زیادی رو علقاه میکن ببینید زمانی که رنگ های خالص به کار ببریم. اما باید به خاطر داشته باشیم که این حالت باعث اذیت افراد نشه. چش رو میزنه. رنگ های مکمل به هیچ وجه مناسب متن نیستن. برید مورد بعدی؟ بله، خودم میرم بعد اینجا نمیره و تجر میکنم. میم رنگ های متشبه رنگی که چفین چی در چیف نوری کنناره همدیگه قرار گرفتم. در دایره رنگ‌ها کنارش هم خیلی خوب جور میشن، در طبیعت بیدا میشن. هارمونیکن. به راحتی پیدا میشن، هارمونی ارتباط برای بستر خیلی ساده است، ارتباط برقرار کردن بین اینها راحت اینها رو میتونه تشخیص بده. خدمت شما عرض بکنم که دل نوازه بعد فراموش نکنیم هنگام استفاده از این رنگ ها تضاد رو هم ن... این استفاده کنیم. یه رنگ و رنگ اصلی انتخاب میکنیم رنگ دوم میشه رنگ حمایت کننده و رنگ سوم هم به عنوان استفاده میشه. به رنگ اصلی رنگ های سدانی یا سلاسی هم بهش میگن این بحث من اینجا عنوان شنشتن ارتباط ریاضی و نظم در رنگ ها عنوان من این بودی که دارم اینا رو بحث میکنم یک نظم عجیب وجود داره اینو رو گفتم به ان ما باید عددی بگیریم که قابل تقسیم باشه یعنی دوازده رنگ گرفتن که هم به سه هم به چهار قابل تقسیمه و ماجرا خوب نشون میده خیلی زیباست ترکیبیست از رنگ های مکمل. یعنی شما نگاه کنید مثلا رنگ بنفش رو یا مثلا رنگ نارنجی رو یک جوری اگه با هم ترکیب بکنید احساس میکنید که در قاعده در بالا به قرمزه خواهید رسید و اون مقابل سبز باز قرار خواهد گرفت علاوه حال این نظم چون مساوی مساوی و 60 درجه تقسیم شده بسیار بسیار هارمونیک به نظر میرسه خدمت شما عرض بکنم که در مورد اینا باید ببینیم چه دید میرسه استفاده از این رنگ‌ها بعد باید حواستون باشه که باز دوباره خدمت شما عرض که کوثر رو کردن اینا رو اگر با رنگ های مثل خاکستری ترکیب بکنیم هارمونی هارمونی سگانه موفقی رو به دست میده یک رنگ رنگ اصلی قرار می گیره دو میشه دو پایه یا سبز اصلی اون بتا میشن پایه یا نارنجی اصلی اون میشن پایه برزدی، بعد این خیلی جالبه در این بحث دارم مکمل های متساوی ساقینی اینا تو تدریس میشه توی دروس هنر یا نه بله یا نه بعضی میگن نه بعضی بله به اما اینا پایه‌ای بعد خب نقاشی اینجوری چیزا بس در رو باردن. این در واقع همون شاخه از زنگای مکمله شما قاعده این مثلث متساوی الساقین رو نگاه کنید یعنی اون دو دایره‌ای که بالاست دقیقاً با هم یکی بشن چیو میدم مثلا قرمز رو دوباره رو روی سبز یعنی شما بخوای از زنگ مکمل استفاده بکنی اما بستیت داشته باشید بخوای دست بیشتر بیشترتون استفاده کنید برای افرادی که مبتدی هستند و کارو شروع میکنن از این بس اینا زید استفاده می کنم بعدی رنگ های که رو به رو دو به دو چی با هم دیگه برید دو به دو با هم دیگه مکملن هم شما ارزو کنم در مورد اینه که یکی بازه رنگ اصلی قرار بدیم فراموش نکنیم این در ایجاد تنوع زیاد خیلی خوبه اینه محصله به رنگ بعدی ترکیب بندی بعدی این به شکل مربعیه شبیه الگوی مستطیل خدمت شما عرض بکنم که در چهار نقطه از دایره به فاصله مساوی قرار گرفته نظم داخلش بیشتر به چشم میاد یک رنگ رو باید انگ دسته قرار بدیم بعد توازن رنگ سرد و گرم باید حتما رعایت بشه خب حالا به تصویر بعدی این ای تصویری که بسیار دل‌نواز ما در طبیعت می‌بینیم از کدام الگو استفاده شده هزار. نه همین همین چهار پنج موردی که گفتم یک دو سه چهار پنج مورد 6 مورد این الگو، الگو متساوی و ساغینیه رنگها رو خاطرتون اتون بمونه بنش و بنفش و فنگیش اگه قرمز برگردید الگو متصاوی و ساغینی رو بیارید شما ببینید این پایر رو بذارید روی زرب خب میبینید اون دو گوشه لاجرم بیرد نزدیک به بنش و نزدیک به قرمز خودش قرار میگیری شاهکار خلقته نمیدونه طرف چرا اما به این گل نگاه میکنه خوشش نه واقعا زیراست گل زرفت مخصوصا توی اون کبیر خوشک این گل زمین چیه؟ یا خاکیه این آدم نگاه میکنه اصلا بی نذیره. مدت ها تو سرین رو نگاه کنه خودش نمیدونه چرا ازش وقت می پرسی می می این پرسی میمیدونه میخوام بگم این ننازم داره برغان نظم اگر دنبالش میکرده اینجاست. تو دل طبیعته. و این برای یک هنرمن مکشوفتره تا فرده دیگه. خدمت شما ارز بکنم که ما مباحث جلسه وقت انشالله که بعد از دهه محرم خواهد بود مربوط میشه. حالا من احتمال دارم مشکل برای پیش بده جلسه هم نتونم بیا. که اطراره سانی میشه. هم تو سایت مساف پورتال دادکام هم اینجا دوستانتون خدمت شما باصی که حالا میشه که مد نظر جلسات بعد ما سراغ ها میریم بعد وارد تخصصی وارد نمادهای سانیومیز بشیم تا از این شلم شوربایی که متاسفانه را افتاده و افرادی به عمد سایت زدن که خراب بکنن عرض کردم یکی دو تا از این ساکاتا فیلتر شد یعنی بعد ما که کاری نیستیم فیلتر بکنیم یعنی خود سیستمای امنیتی تشخیص دادن که اینا مریضن دارن این کاری خراب میکنن که جریان لوکس بشه به صورت تخصصی بررسی بشه که آیا دیگه مردم به هر چه میدونم یازده گیر نده این یازده کجاها کاربرد داره این اعداد کجا کاربرد داره آیا اصلا 11 مال اوناست خیر الان از خدای منسی حتما مال اونها نیست بحث مصادره نمادهاست که اونا موفق شدن قارد میشن من در مورد یکی از شکل ها توضیح بدم که گفتم اگر یک نمادی خیلی بحث خوب نشه مثال یادم افتاد مثلا نشانه نشاد بشه نگم اون که نوشتم بحث نمادهای تعیین است اینم خیلی مهمه بعضی از اشکال و نماده ها تعمیم یاخته بیش اشکال دیگرن فلیزا اگر بتونیم مسادرش بکنی پدر سا بچه ها داره بودی طرف مقابل به زامن داره بودی توی برس به عنوان مثال بحث مربوط به ستاره ستاره شما از چهار پر ترسیم میکنن تا ستاره نفر که معنی داره به صورت نمادی ببینید عزیزا ستاره چهار پر امروز میگم نماد چیست؟ دارم میگم آخو امروز ستاره که به بچه میگه ستاره استفاده نکن. میید چرا میگه ستاره چه مال نتووعه راست میگه ارمه ناتو چیه؟؟ چرا, چرا اونجا رتر خواهم گفته چرا دست این دست گذاشتم روی این چشم هم شدهتون عرضخوا. عموم ها قرار ها نماده هایی که سنگیونی ها استفاده میکنن عموماً قراردادی است نه نشان و ش... نشانه نیست شمایل و نمایه نیست قرارداده داده. به سادگی میتونیم به سادگی میتونیم این کار رو انجام بدیم زحمت نمیخوایم بکشیم چون ما فطری میجنگیم اما او غیر فطری میجنگیم ما به فطرت اعتقاد داریم فلاذ موفقتر خواهیم بود ستاره پنج‌پر متأسفانه با عنوان پنتاگرام با عنوان نماد شیطان پرستی جا افتاد در حالی که اینطور نیست تخصصی باید یک راستش پایین باشه داخل دو تا دایره باشه تازه همینش هم باز شرایط داره اینا رو در مورد معانی اونها اینا مفصل سه نکن ستاره شش‌پر نماد یهود امروز نماده روش سهیونیزم نه نمادیه بود اما عملا ما عرض کردیم یهودیان و مؤمن رو هم داریم سه تا گزاره داریم اگر اینا رو قبول بشن یهودی مؤمنن. وگر وگرنه صهیونیستا من شوخی رو کسی ندارم ندارم رو حیرتتون میگم رو کمید یک ایمان به خدا دو ایمان به جهان آخرت یا بزنین دو یکی بگیم ایمان به خدا و معاد دو احترام به پیامبران الهی سه احترام به بقیه انسان‌ها هیون ندونه بقیه انسان‌ها رو اگر یک اندازه ستو گزارین عدول بکنه بیاد خارج بشه من اصلا به اون یک انسان هم قبول ندارم که کل انام بلهم ازل اینا هم مثل چهارپایانم هم دلار چهارپایانم بدترن کسی که پایمران الهی توئین کنه کسی که خدا رو مذهبه خودش قرار بده به هر شکلی که دلش خواه تفسیر می‌کنه کسی که معاد را قبول نداشته باشه و کسی که به انسان‌ها به عنوان جنتیل بیگانگان نگاه بکنه که بگه می‌تونی برای اینها افسار بزنی اینم قبول ند. فلزا ستاره شیشگانه آن صهیونیزمه. برای بله در مورد این بحث کنیم که خیلی واضحه دیگه. الان ستاره شیشگانه همه متأسفانه اونها میدونن در حالی که مالونها بگی نبوده به خدا قسم، نبوده. اصلا قرن هفتم میلادی بر اولین بار اینو وارد کردن. نبوده قبلش. بر رساله باستان شناسی صورت گرفته. تو کتب خود اینا نیست قبلش. ای یک بار وارد شده، تحریف و دست خودشون مینویسن سایرس. ستار هفتور ارتباطی امیل با یهودیت داره اون با سهیانیز این با چی؟ با یهود ببین؟ تفاوت قائل شدم این برمیگرده به نردمان هفت پله حضرت داوود، هفت آسمانی که اروج بکنه بره با نور و آتش ارتباط داره هر جا عدد هفت در کنار نور دیدید نماد اینها میشه و اگر نه هفت ماله همه تمجنهات هستن اینقدر فروگیر عدد هفت ستاره هشت که مال شوالیه های تمپلره البته با نماد دو مربع تو در تو اینا اشتباه نگیره ستاره هشت پر. ستاره نوپر که میگن مال بقایی هست پس ببخشید ما سراغا کدوم ستاره بریم هیچی دیگه یا باید بریم ده پر یا بریم دو پر یه پر مثلا ستاره یه پر <تصفيق> شروعشو در آردن میگه وقتی دفاع نکنی همه میشه چی گفته ستاره 5 بر مال الناصر تو شرف و شمس ستاره 5 بره. این مسجد جامع یزد رو بینی صفحش همینجوری هم الحمدلله زیاد شده 4 بر 5 بر 6 بر 7 بر داره میره. بعد شیک ایجاب کرده چی گفت آقا مال است؟ همین سکوت و این نمادهای تعمیمی رو که خدمت شما عرض کردم باید حتما گفتم اینه. رفتن سراغ مسائلی که تأمین دادنش آسونه. کل ستاره کنترل واسه مال خودشون. و بیجا کردید این مال ما تمام مردم ها تمدن هاست این باید درست ازش استفاده بشه. زمانی که او این طور به نماز ظلرفقا رو حمله میکنه بدون اصلا ارزش برشقاائل برای, برای این نماد بتونید استفاده بکنی اون فهمیده اینطور که دی چقدر زیبا برنا کرده بود ییم استفاده بکنیم حالا ما هم محرم خودد بیا شروع شده دیگه اصلا امشب جلسات شروع شده. خدمت شما ارز کنم که سر سر تا سرش نماده از اون فیرهن مشکی از زنجیر زدنش از سینه زدنش از تمام نماده هایی که استفاده میشه تو این ما از تکیهایی که سر کوچه ها میزنن از حس حالی که میگیره شهر نباید بذاری نه من جای دشمن باشم ببینم چیکار میکنم همون کاری که کرده میده نمیاد بگه امام حسین نه نماد هاش نه میاد دونه دونه اینا رو توحی میکنه تو اصلا مادی ها وارد شده تو اصلا نماد ها هم داره وارد میشه قطعا روی رنگ ها کار خواهد شد شک نداریم و اخیرا شنیدم که یکی از کارگردان های معروف میخواد امام حسین رو بسازه خب این نمادین کار میکنن خیلی خطر داره واقعا خودم بجنبیم فراموش نکنین اولین تصویر در ذهن انسان میشینه هنوز که هنوزه مردم های داره شهر جنبی نمیگن مال کشتر چه هنر رو میخواد بذاره به جای امام حسین؟ چه هنر رو میخواد بذاره به جای حضرت عبورفر؟ چه هنر پیش رو میخواد بذاره به جای حضرت زینم؟ اینها فتمه ها کردن قبلا فراموش نکنی. در جریان فیلم مسائب مرسی چه مونیکا بلوچی بیاد نخش مریان مجدلی هر بازی بکنه؟ مونیکا بلوچی به چی معروف قبلش؟ این نماد چیست؟ نماد چی می‌دین چی سعیه، سعی چی زیر برای حضرت مریم مجذلیه قائلات؟ چی می‌گن ای بود که حضرت مسیح نجاتش داد. به عمد مونیکا پلیچی استفاده کردن در تمام این فیلمش من فیلم هم سرغ ندارم که این بار به خدا علیه السلام تا آخر این پیش رفته می این پیشرفته باشه. می‌بینیدش تجاوز میشه. کار اینقدر قشنگ گفتم فافرادی نماد میشن بعد از اون میتونی استفاده بکنی. خیلی بحث مهمیه. اینا بعد هنرمندای موارد بشن. مردم امروز وقتی مثل کاراکتر مثل آقای فریبوز عربی عرب یا ننش و مختار رو بازی میکنه برش با را س همین فیلم بود دیگه داشت کفش می همین درکی بهنا آاپوشیم ما بعضا با میستیم ما ایرانی مفتی روزنامه می کنیمیم. پای نگاه میکنیم و خدم شما عرضو کنم مجله آالش شوخ میکنم جای داشتاشتم نگاه میکردم مثلا یه اشت از یه عکس از های فریبوز عربیه دیدم که آم از صورتش رو باغی اصللا کرده بود و یک فراقات داده بود مثل اینجوری شده. من این آدم رو ربطه بر من شده کی؟ مختار گزم مختار بسید چه سکر کرده اینجا ببینید این بحث ها خیلی است. یعنی فرض نکنید فری برز عربی بیرون بیاد خودشه الان ببیننش مردم دنبال اس بگرم یا مختار زیاد فشار به خودشون نمیارن این خیلی مباحثه مهمیه این باید کار بشه هنرمندان باید کار کنن خانه سینما، خانه تئاتر، سینم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینا باید کار کنن، صدا و سیما باید کار کنه. چی بگیم والا بنده خدا سوال در مورد صدا و سیما پرسید گفت چه این کارا رو می‌کنه، چه این میکنه فلان فلان گفتم بذار من یه مصرع فقط بخونم. گفتیم همین صدا سیما بارها برای مشاوره پیش ما آمده ما فی سبیل الله بهشون مشاوره دادیم به خدا قسم. تایم‌های دیگه رو کنسل مشاوره دادیم یه قرون پول واسه اینا به خاطر که وظیفه کوچیک خودمون میدونیم چشمون ک ددم و نرد ببین چی دارم میگ. اما یک بار یاد این مثله از یک بر تیدده ها مثله اولش کافیه بزار تا گریم چون اردم و ها. واقعا یعنی همین فضا من می بینم. آیا این کارتون باید بیاد دوبله بشه تلویزیون ما پخش بکنه من نمیگم اون کارتون رو پخش نکن به خدا قسمم که هم چرپر زدم یه تحلیلگر گرد ده اولش کنه برعث مردم بیشتر خوششون میاد. یا اون تیکر رو سانسور کن به جای فیلم بر می‌خورد اون تیک سانسورش اول انقلاب این کارو می‌کردیم ها اولاً انقلاب کمونیستو که فیلم می‌ساختن یه آدم جوانمرد به قول نمادین صحبت بکنیم چی یه فردین جوان جوانمردی نمادین ببین چه چیزی کار شده و الله چه های فیلم فاسته قدیم فردین همیشه نماد دشمنشی و به قول آره مردانگی بوده روش مونده هنوز که هنوز روش مونده یه فردین و چیچینی میخواد رو آیه فریباده نمونه؟ فرن خودا خودش بود شده حالا کار نداریم چی داشتیم میگفتیم؟ <تصفيق> یه نفر بگی آقا جلو آه کومونیستا رو فیلم هاشی وقتی وارد میشه یه اون جب مردشون، اون فتاهشون رو نشون میدادن که وقتی جامعیتا آخر فیلم این میاد زوم میکرد روی کلاهش یا روی لباس شما میدین ستاره سرخ کونی شده داشت یعنی تمام مفاهیم یوه میخواستن روی اینام ایرانی ها اول انقلاب هم صداستون ولی میشن این سریال کلا دوبله میکنن یعنی فیلم ها اون تیکه که میخواستن کلا اینا نشون بده کات میکردن صدای شوروی در اومد گفت به شرطی بیت فیلم میدم چون ستاره رو نشون بدید خب اون میدونه با چه هدفی داره میزاده جنگ سرده اونم خوب هم, هم کرد کاسه میکه دادشون در اومد گفت او شما که الحمدلله تو فنچس بودن استادید اونشینه یه جوری خود ما بخره تو کلا داستانش عوض شد برداشته خیلی اخلاقی میشه از خانم کرد. والا این یک کردن یه موشه داره چاقو دستش گرفته زulfqar دستش گرفته توهیه به ما مثلا بش بد عقاید مردم برمیخوره خب آره برای که شد. همینجوری گذاشتن دادن کار خودشون سرتون درد آوردم دوستان داریم که تو این ایام خاص مرا از دعای خیرتون فراموش نکنید به خدای بزرگ سپارمتون هرتون درد آوردم دوستان داریم که توی ایام خاص ما را از دای خیرتون فراموش نکنید به خدای بزرگ